باشه <laughs> نام مرا سام منقوبیی سال‌ها رفت و مرد در درگه آتش حال یا نگران من خصوصی سلامتی در چنین در پرد زمان اگر الله سلام بر تاکویان سلام بر سلام بر رهتویان راه بیش. و سلام بر ایران و سلام بر آذربایجان، و سلام بر دانشگاه آزرباجیان اشترای <تصفح> سلام از شده یا سلام آرزم و, و خیلی در خدمت تمام ارسان که تشکا بودن به این برنامه و با دراتا به زمان برنامه ارسادم ما دکتی قصیش دیست زمان برنامه کونتاست داشت با زمان برنامه کاملی سال مجرور شدیم اینکه ترداد که انجام بریم من از پایی از این تغییرات و به شما فرید میکنم کسا که ا و باید همیشه دفاع بکنیم تشریف باورد برنامه بنامه. من شرط و نقطه، روات از که زمان هم دیش شده، فقط شرط و نقطه تو چیز عرض کرد از منظر اصلا رو زمان تو برنگه تا نموز مظلوش ها بود. یکی هم میگه عرض کنن در مورد پرسش پاسخهایی که صورت قاید گرفت، عزیزان اتماع رو. بایتوک که اون گوشه شده، می‌نریسم و تفضل اون دیست که از آرهان که از آرهان عزوزان می‌کنن برم در بر از نویسی بکنن برای پروسیسای این شفایی، پروسیسای کردی هم درست نفسی بود و یک مسئله، برنامه که این روز اختصار داریم، برنامه که ما میخواهیم در مورد برنامه که ما میخواهیم برنامه و ماهیت آزبایزان بسرمیم. ما در مورد این برنامه خیلی از اجازان انتظار می کردن که یک مقدار تنگ تیکساش و کلان، ما نه، تنگ نید. این مسئله ای که ما همان باید ببینیم. یک مسئله که مرتبازه ایش هستیم و باید ببینیم که واقعا ماهیت و ما ببینه کلام طبق اون رو بگم من هیچ موقع اما چیز رو الان منکه چهار سر روی این سر داریم برمانه دارم کنیم تجا چیز نه تجیبهی چیز چهار در من خواب باید اتفاقه کرده باشیم من تالا زمان آذری و اینکه یه این سه زیاد صحابت نکردم فقط این قدام ترکی داشته باشم و همین که با خدا را راییم ترکی یا که از استاد خواهی خواهید که از اشعار ترکی رو به هم بکنن، انشاءالله استفاد استفاده خواهید کرد پیشا بیش بگیر، یا جدارت نیست که ترکی رو به درش نیستن، فقط من سفارش برادران می ترکی رو به یاد بگیرد هم برای.. برای این دنیا ترخو برد هم برای تون که کنی سوال جواب آخرتم ترکیه ببینه داره کلام با تشکر که شما از آن ها مولایی استاد بزرگوار گلواز رو, رو تو خواهید بود تشکر بفردید آره فقط در مورد حضاره چند تا فقط از ایشون چند مورد بوده فقط مثلا در مورد رو بوده حضاره موضایی مطلعه دشه داره تفکیرات در تفکیر ارفانی، حوضری از در ساری تفکیرات هستند. از سال هشت تا نزده نزده سال در باکو پاکور، به تفسیر شرم قرآن کریم پردفتند. ترجمه قرآن، منتقل میزان و حکمت، نفس به زبان آذری نظر که این استاد مولایی سه پرسید رو انجام شده فرزنگار قصفاد آلمان دینی قصفاد که مفتر در مورد معاکر که اگر دیر نظر استاد بگه موضوع مقاقر دینی قصفاد بیشتر اما در اولت ها و امامزاجگاه نظر استاد بوده موضوع مفاخر ارنویز نظر استاد بوده. چاپ نزدیک به دخش کتاب در زمین آزربایجان تا نمش شد. از شرط مقاله در موضوعه به طوریت و ش... استاد ما مختقریم. شاگردی آنطولا فهلوانی و سایر خودوزان داشتن. و این مقال استاد گفتند ما ننیم. فقط استاد که من گیرد ای بیاداری بکنم. فقط آخرین زمین که استاد که استاد از شاگردان مخصوصی آیتون بایستر کدن و ایشون و پشکر ایشون در این زمینه کام داشتن سلامتی استاد و سلامتی خودتون که مارد هستن من یه که در حکمت و صورت در نشاره در که در وقتش میشه دوست ما باشه اینکه تمام بکنه مثلا اسم الله اکبر سلام علیکم الحمدلله و الصلاه والسلام علی رسول الله و زندگی سر کاندران همیشه حضوری در محافظه اینی، دارشنگی و تنوزی از این باورتن اصطبای تشکر می و سر اصطبای پتر پیشانی در در که ما رو در این جهت قرار داده ما کسانی یعنی شدیم که مثلا که <trolles> این راه و خدایی که ما در گرفتیم فضای علمی و از میکنم که هیچ نعمتی برابری با این نمیکنه که انسان در مسیر علم، در مسیر آگاهی و در مسیر دانش باشه مرهوم علامه شهید متحرید زان الله یه بیانی دارن در آثارشون ایشون می که من با خودم محاسبه میکردم. که اگر من طلبه نمی شدم و در مسیر علم و معرفت نمی بودم مثلا به شغل دیگه می پرداستم چطور بود یک بود خوب بود فایده چی بود و اینها ایشون می که من به کردم دیدم اگر یک مسئله عنایت بفرمایید یک مسئله اعتقادی که بر من حل شده در این مسیر برای همه دنیا و آخرت من چطایت میکنه، کنه به این بزرگتر تاعدت یک مثلا تردفر می بحث جبرشتی ها مثلا، حالا این یکی از مؤسمات و مباحث بسیار مهم که کن حالتون میدونید دونید و برابر عزیزم زنا به هم بهتر میدونم این یک مسئله پیچیده ایست ایشون میگه که همین گشمت برای من حل شده و درستی و نادرستی عقایت در اون زمینه بر من برچند شده بزرگترین نعمت است که من دارم نماند شیلی چیزایی دیگه حمیزا مسیر علم و چنین مسیر مقدس و بسیار خوب و بسیار مهم نیست در حال من خوشحالیم رو از اونجه هست خدمت شما اعلام می کنم عزیزم خرمدن که ما افتخواد اونجانی بودیم درسته استخاب این رو داشتیم اما خودم مرددن به اینکه که آن ردد که این بزرگان برای ما مایی نجات خواهد بود یا ما آزده مایی شقابت چون گاهی و گاه اشخاصی این بزرگان رو ما ببینیم و از اینها استفاده نکنیم بکنیم همین دیدن اینها بر علیه ما تنور میشه کراون بر علیه ما حجت داره میگه که شما که بحث رو دیده که بزرگ آرف اصل خودش بود ازوان الله تاوره شما که تهرانی رو دیده بودید شما که تهرانی رو دیده بودید اینا مردان بزرگی که سراسر عمشون به سوز و عشق و, و صفا گذاروندن آیا خب و خیلی مشکل از این جهت حجت بر علیه درمشید به همین لحاظ که اجازه بدید من ارائزم رو با دو جمله کوتاه از بکنم بردواری بحث اول اینه که آج الله خدا می‌دونی که من از سال ۷۲، گبرون سال ۷۲ یه بحثی بود، حالا بمانه دو، از سال ۷۲ تدیباً محضر ایشون مرامده داشتیم. کراماتی از ایشون دیدن. خودم از بیگری نقد نمی‌کنم، از اخبار از زمیرم، از بعضی که ساکی موضوع بحثمون در این ارتباط نیست و من می‌دیدارم. فقط یه نکتر رو به شما می‌گم، این گزرگوار چقدر داشتن. به ماها قایی یک روایت رو مثلا محضرشون شرف می شدیم آقا شما اون روایت مثلا فرسالی نونسفن زبیان رو در ارسان خدمت شما که برهان دیدید تفسیر برهان ارجا می دادن به اون بنده کتابی نوشتن که در سال 78 ساقه هشت چاخ شد به نام رازدار خبرت میشین اصلا اینکه که این کسا رو چه کسی به نظره تجدیری به من می‌کنه که چیش رو چیش این دوایا و اطراف گذیه تشریح کردن ما رو قدم, قدم به قدم به این که آقایی در این خصوص پیدا بکنید یکی از بزرگانی که از محظر ایشون در دوران جوانی یعنی جوانی یا ایشون استفاده کرده دقت کنید ایشون می که یه بار بچه بحثت لابلای درسشون یک دفعه بحث رو قرد کردن یک مسئله اعتباری بیان کردن در خصوص مسئله یه بلایت بلایت همین رو مانده. یه مسئله اعتباری میگه من خودم تجرب کردم گفتم این مسئله به چه مناسبتی بود؟ برای چی این رو گفتم؟ مناسبتی نیست مثلا بحث یه بحث فکریه ایشون یه دفعه چرا رفتن روی این بحث رو کردند، برگشتن؟ می موند این تا حدود ده کونزه روز گذشت ایشون می فرمودن که دقیقا من دیدم همون شبهه برای خود من آرش شد اونجا فهمیدم که آقای بحجت کونزه روز گرد جواب این شبهه رو به من دادن فهمیدم که اون روز که ایشون این جواب رو دادن جواب من بود نظائل اینها خود بنده دیدم و بارها آقا خیلی تأکید داشتن روی بحث آگاهی میفرمودند که باید ربط خریدا مساعد اعتباری و امثال اینها رو تأکید داشتند این یه نکته نکته دوم که مقدمه آغاز بحسم بشه نابود شنیدی یکی از مفافر حالا آذربایجان ما مرهوم ما ما یونس عقیبیلی هستند ایشون از مراجع سد سال گذشته هستند از شاگردان بزرگ مرهوم آخن مرد بسیار بوده از در علمی و نعمدیست صاحب کرامات و چه؟ یکی از اطرافیان میگه که وقتی که در مشهد بودن چون از مراجع مشهد بود یکی از این افتاد و مرشدان طریقه گنابادی ایشون اومد بیش مرحومات دیونست مسائل داشت شبهاتی بحث با آقا منادره و مباحثه کردن شاید این مناظره با مباحثه در حدود مثلا 3-4 ساعتی چوب کشید. مناظرهشون به نتیجه نرسید. اینها قرار بذاشتن با هم که مثلا فرض که روز دوشنبه مثلا در نفسد گوهرشاد با همدیگه بحث بکنند. ایشون هم بیاد، آتیجمانیت هم بیاد و با هم بحث بکنند. روز دوشنبه می که من وقتی که با آقا داشتیم به طرف مسجد دو هر شاب می رفتیم جان کرا اینجا و آقا گفتن آقا ما میریم با این آقا بحث بکنیم شما بحث میکنید اگر احیانا ایشون شما رو محکوم کرد و مثلا به چیزی گفت شما اون وقت چه کار ببینید نقطه اینه میگه آفید یونیس برگشت که آقا به جزم بسن من اگر هفتی در ایشون ببینم خواهم تگیرون به خدا بسم به جزم بسم من جز که به دنبال هفت هستم دنبال چیزی نیستم اگر در دیان فرمایشات و ایشون مقرب درستی رو ببینم حتما این رو خواهم تگیرون این شیره و رقش برگان هم آبوده و عقل هم این رو اقتضا می و جریانات دیگه غازم و بدیهیه و مثلت آخری من عنوان مقدمه این مطلب باشه که ما خالی به اهمیت معرفت و تسلیم در دراور معرفت چیزی نداریم گاهی معرفت هست تسلیم نیست در باقه بس به ایمان نظروم مولا صدرها صدر محمد بن ابراهیم قرامی شیرازی معروف به صدر مولا صدرها و معروف ایشون میگه که ایمان عبارت هست از معرفت مردم شاید اون تا یک انصار دیگه ای در کنار این انصار معرفت هست اونم تدلیمه چون بعضی ها معرفتشو دارن شیطان معرفتشو داشت قرآن رو کندید دیگه شیطان میگه که خلق تمین من نار و خلق تموم ملکی. میگه که خدای من رو از آتش آخری و انسان رو از خاک ولی با این همه تبعیت نمیکنه ببینید توحید افعال شیطان خیلی قویه ولی از این در مشکل داره تسلیم نیست ما کاری از این تحصیل معرفت تسلیم نداریم فلذا بزرگان ما چقدر اهمیت میدادند حضرت عبدالعظیم حسنی رو لابد مشرف شدید به زیارت در شهره ایشون از امامزادگان بسیار مهم و بزرگوارند عالمند سیدند بزرگوارند امامزادند با این حال این بزرگوار میره مهزر امام حادی علیه السلام ایمانشو به ایشون عرضه میکنه. در اون سنو ساله که ایشون شاید حداقل 20 سال 25 سال از امام حادی گروفتر دودن. میگه یکن رسول الله میخوام ایمانم رو به شما عرضه بکنم. آیا ببینید این ایمان من این اعتقادات من اشکالی داره یا نه؟ امام حادی که شما شهنیتون عجل و ولی با این میگه میگید رسول الله شما حجت بر منید، شما ایمان منید، من باید تصدیل بکنم ایمان و اعتقال خودم رو با شما. این بزرگان ما، ببینید این رو از اهل و منطق و حتی از مراقه ما، همین آیات به و رسول الله رسول محمد حجرت کوکمری، که میدونید از مراقه بزرگی که ایشون بداخلی استخار ما هستن، ایشون، در وقت گمتشون میگن چند نفر از مراجع گمت رو دور خودشون جمع کردن بعد پرمودن که من هم رو میگم اگر اشکالی درش هست تثیر بکنید ببینید که چه مهم بوده؟ خب این چند مقدمه که اینها رو داشته داشتید یه سر بفرستی. ما هنه هم یک چیز درای همه ما مسلمه اون این که ما وطنمون رو دوست داریم در این هیچ پردیدی نیست حاضر این همه برای وطنمون جانمون رو قربان بکنیم و این هیچ عبدی، منطبی و حتی ایمانی و اعتقادی هیچ امر بسیار مسلم لتذیرفت شده از این برم هیچ خلوم ما نمیخواهیم خلاف سر خودمون بماییم بگذاریم و شیره سرمون بماییم این دو نه شیرهی بتر به مالی این منه کلاه ده سر خودمون بفاید واقعیت هرچه هست هر اون رو بدایم این واقعیت رو با باید با تلاش با خوشش رفت و دیر همه ماهای که به شما گفتن و شما هم هر کدومتون به نظری ایسی مشرف بشید این رو به شما خواهند گفت بنده وقتی میخواستن برن این من چند سال در باقود زندگی کردم در لنکران وجب به وجب اینها رو میشناسم. من با اینا زندگی کردن نگید که من یک طلبه هستم که نمیدونم و اطلاع ندارم و چیزی نمیگم نه شاید هیچ کدوم شما باید به مذارت میگم اما حوصله این رو نداشته باشید پاشید برید مثلا قصده مردکان یا مردکان از حوابه باکو سر قبر مظهوم ها زمین آبیدین طبیعه یا سر قبر مظهوم نیرزا ابو تراب بادکوبه ای ایشون متوقفات سال 1910 میادیه از عورت و از علمه و شخصیت های بیبدیل منطقه این که هفتاد که خودمون فرده گامو با سفرهایی کرده هم برای که برم و س... یکی از اون بزرگواران قبرشون رو مثلا درست بکنم یه نمونه به شما بگم در همین ارون... ارونیه ما یکی از بزرگان اهل معرفت در چهارم چهارون هجری زندگی میکرده به نام ابوبکت حسین ابن عبیه ابن یکدانیار شخصیت بسیار مهم است. از افعاد شخصیتیشون و در براتم بگن داستان طولانی گبریشون بنده میدونن خدا و متحده سنگذردیشون رو بردن موزه و گبرش به این رفته حدودش مشخصه بنده رفتن. و از مسئوله اونجا خواستم, خواستم که اون رو حفظ بکنید یعنی میخوام بگم که بنده میخواستم وقتی که برم اونجا باقای دهجت گفتن گفتم آقا من دارم میرم اون منطقه بلی نگران درخوره ما توی محیط قوم محیط تقدس محیط مثلا چه سلوک علم چه چه خب میریم اونجا هوا و تدایی دیگه اگر ما بریم اونجا اون مشکل دارم ایشون دگ ایشون برگشت به من فرمود آقا خیال میکنید که سید سلوک به اینه که هزار هزاردانه دستتون بگیرید همش ذکر بگید نه آقا این نیست برید آقا برید با این تعبیه تشویقمون کردند کردن کردند کردن و مارد و تیفیر هم بودن نماندیم گفته پس باید رفت ما میخواییم بدونیم که این که آذربایجان کجا کجاست چیه چیه حدودش، مرزش چه بلاهایی میخوان سرش بیارن؟ چه بلاهایی در گذشته سرش آوردن؟ بعد از این میخوان چیکار خواهد کنن؟ فروسی که پیدا به قول مقام مرزان رهبری در برد یا ترماشاتشون میفرمان که ایشون من میبینم دیدی چه میدید؟ من, من میبینم دهانهای باد و دندانهای به هم خوشورده رو چشمان چه رو؟ حالا من مقربه مضمون میکنم بعد میفرمان چه کنم که نمیبینم. این این مطالب چیزاست که امیر و هم در اصل خودش می فهمده. حالا آزرباجان یکی از بخشها و ایالات بسیار مهم ایران بزرگ اکیام در این هیچ تحقیقی نیست این ها است که دیگه ثابت و مسلم و حسین آزرباجان یکی از ایالات بسیار تأثیر گذار و سرنوشت ساز در سرنوشت ایران بزرگه مواهب طبیعی و استعدادهای ویژه این منطقه داره و در گذرگاه بسیار مهمی واقع شده همیشه این منطقه محمق نظر اولا رقبای محلی و منطقه‌ای بوده و بعد هم گذرگاه های شما میدونید که کشور عزیز ما، ایران عزیز ما به طور کلی، در یک منطقه ایجر که بسیار مهم واقع شده از یک تعبیر و منظر دیگه ما اگر به این مسئله نگاه کنیم باید بگیم که ایران بام دنیا شما یه نگاهی به اطراف بکنید من با به نظرک که نظر افتراب زخت رو دارم چون میدونم که مباحث گستردرست، مهم هست از این طرف زخت خیلی کمید این مطالبی که دارم من به شما میگم هر نقصه مو... سرپسیه برای تحضیق و پجوهش. شما ای که باید اینها رو پجوهش بکنید بدون تأثب بدون احساساتی شدن بدون جرگیر شدن چطور که من یه طلبه جوان بیروز بودن که حتی یه موی سفید هم تو این محافظه من نبود حالا من خیلی سفید نشده ها ردبندی جد جو جو جوانن حساب میشنه شما ها این بهتراه ما رستیم دنبال این مکاله حالا شما هم همینطور تو هر کدوم از اینها یک سوژه ای که شما برید و واقعیت رو پیدا بکنید ما میگیم پرشید رو پیدا میکنید ما میگیم برکار رو جارو میکنید گاهی اوگه یه باریده برکایی باروندن که نداشته ما پرشید رو بریمید وظیفه ملی دینی اسلامی هرچه که شما اسمشو میزارید همش اینه که ما باید بریم و این مطالب رو کاملا پیدا بکنیم برادران و خواهران من خب از چه چیزی نباید ناراحت شد ببینید الان من یه چیزی به شما بگم روزانه شبان از امام ابباس اینجا هستن و از هیچ کار نمون. آسان کردن شاهد در اندرای هراید خودم. البته خیلی آخوند هیچ کار خصوصی نداره تو مجلسی هیچ آخوند دیگه باشه. این دلیل چرا وقت به ربوذ و سلسله خونه زن ولیات و دولت سنمینا مشهدایی دیگه. داد دستای خارج ما آموزش کنید. چه آغاید، چه کسی چه فکرش، چه اصولش، چه طرفشه، چه احسان داره. همه, همه روزه در قم بزرگان اصلی زنان مطلب رو تقریر می کند کنبه های اعتراض میکنه. یه بار یادم حضرت های که مانوز وحید خراسانی یه بحث اصولی مطرح می کرد نظر مرموم نیرزا رو نقد میکرد. یه طلبه هی مرتب اشکال میکرد اشکال میکرد. کرد آقا یه دسته فرمودن آقا با اون این بلایان سنگین خودشون فرمودن آقا قدری تعمل کنی بزرگی مثل مرموم نیست. که داره از زمین میوسته یعنی داره نظرش رو نقد میکنه بزنید که خاطره شیرین یه از ذهو موجودات باشه بچه‌نلانه‌کن کیشو باشه както بعد, بعد, بعد. پوش این اصلا چه شما اگر ما همین مقدمات رو تلفر بش نکنیم مطمئن باشید آزربایجان م درست نمیفهم مرحوم های تبریضی یه بار تو درس خارجشون ه میکرد مطلب تقریر میکردن یه طلبهی سید مرتب اشکال میکرد یه دفعه آغا برگشت وفت آغا تورا همون لهجه ترکی آغا تورا بقس دست ن ا بعد هم حرف گفت جدش هم قبول ندارد لهج ازیز من این رو به بهخاطر اینکه آسانی ای تحمل شما بالا برد و اضافه از این آذربایجان من حرف دارم الان میخوام بگم که یه خورده تحمل داشته باشید برای این خب آذربایجان آزربایجان زرسرزنی موا... نیست که مواهب طبیعی و مواهب مختلف داره در منطقه واقع شده که مقدمه ورود به اروح و غرب دنیا و اصلاح برای خاکی ما خب و از اون طرف دیگه بحث کوه و دریا و مسائل جغلاقیش اینا به قول آقا بماند که نه میکنم وارد بشن من از قصد داشتم شما خودتون برید ببینید استعدادها و نبوغهای فراوانی در این زمینه ما در به اصلاح آذربایجان مشاهده می کنیم در زمینه های مختلف کما اینکه که در نقاط دیگر ایران همینطوره اینجا یه اطلبوی خاص خودشو داره مثلا ارخای منطقه آزربایجان شما چند نفر از ارخای آزربایجان رو مثل شیخ حسن تبریزی، صلبات تبریزی، همین ارموی که اسم شریف و مقدسشون رو گفتن شرک تبریزی، حیات اینها رو جز به جز بدونید شما چقدر میدونید در مورد شیخ ابو سعید اردویلی از شاگدان جنید بردادی اردبیلی در مورد عبدالرحیم یاد الرحمن کاکولی اردبیلی؟ الا ما شاالله حبید عزیز ما و رمیه عزیز ما و همسالی ها شیخ سفی اردبیلی، بسیاری از بدلکان ما شما یک کتابی به شما میگن این کتاب رو کتاب حافظ حسین کربلایی رو دو جنان بسیار کتاب مهمی است در جلد نهم نوشته شده در خصوص عرفا منطقه شیخ شهابودین الدین شیخ محمود بسیاری از بزرگان ما اینها الهام نکات و مسائلی که درباره استعدادها شما چقدر در مورد آلمان دینی آذربایجان میدونید از مرحوم شیخ الاسلام قوروی از موضوع میزبادراهای مستند تحریری از مرموم نیزا زوال آقای از مرموم نیزا های مختلف تبریجی میزر یک سراغ ها حالا شما ببینید دوستان اگر ما این سابقه ها رو و این گذشته ها رو و این مفاخر رو نشناتیم در دان گرفتار میشیم انسان وقتی که ندونه بزرگ و کوچک نشناسه یک موردی رو ممکنه برای ما بزرگ و یک موردی رو برای ما کوچک بدن حالا دوست ما میگی که شما بگید سر اصل مسئله، این اصل مسئله میرزا زواد آقای چی کی کسیز در دوران عهد ناصری عظمتی از علم و معنویت و جرایت و مدیریت داره ایشون که میگن اگر سلطنت گازار به زیر کشیده شد این مرد میتواند کشور را اداره بکنه میرزا عبورغاصر فراهانی، پسرش، اینها رو باید ما بشناسیم از ها رو توها رو ببینیم سهند و سهدان رو ببینیم تا به هر تفتهی نگیم تا به هر نگیم <تصفيق> <تصفيق> اونها اون لفات بسیار مهمه دوست ما فرمودن که از اینها بگذریم. بله من می‌گذرم. باید اولامه تبا رو دید خاندان تبا تبریض و رو شما چه شناختی از مرحوم دکتر سیفتن گازی تبا میدونید؟ دونی؟ می میدونید دکتر سیفتن گازی تبایی از اتاسید برگسته زمان خودش بود که در علم امساب و تراجم و تاریف و همه اینها سرامتید؟ من نه وقتی هست، نه مجالی هست وقتی یه وقتی دیگه می‌خواد سر هر کدوم از این بزرگان با شما صحبت بکنم تا بدانیم که اینها کشکتانی بودن از علامه محمد صدی جعفری بگذاریم و همه بزرگ خب این بزرگواران. خب اینها یک بسید از الهی عبدالی بگذاریم و خیلی هایی دیگه خب از اینها که ما محمد میگذاریم به کرداران از آزربایجان سرداران آذربایجان در, در گذشته تاریخ ما چه کسانی بودند که در همین منطقه آذربایجان با تمام قرد در مقابل دشمن ایستادند. نه فریدشون بخوردن و نه از جانشون برای فدا کردن ایست گذشتن. شما جوادخان جمجهی رو میشناسید؟ بله. حالا این جوادخان جمجهی ای رو از واقعی اون گراهت واقعیش رو میدونید. ایشون یکی از آخرین والیان من شهر جنجه بوده که برای تمامیت عرضی ایران اسلامی جانشو و را گربانی کرده خب ایشون آخرین وادی در جریان و ایران و روس جنجه بوده که در مقابل روسها به اصلاح مقاومت میکنه خب از دست خب الان قضیه رو به نوعی دیگه جلزه میدن که تنجاش مثل خدمت شما از میکنم از باگرخان و ستاکان و بسیاری دیگر در این منطقه و ترداران دوران خودمون از باکری ها و کتائی ها و ها و که من اونها رو دیدم من اون را دیدم یاران به گاغ رد خوش میان آتش و کون من صبح عمضیات مسلم عزیز بنده در خای کوه ترمبخار اون نورانی شهید آرمهدی باکری رو دیدم و برسر اون پیمان هم هستند و تا حالا هم بزرگترین به خاطره و زیباترین نقشید این نموداری از آزربایجان ما خب حالا برگردیم به یک وقتی دیگه آزربایجان کجا واقعا؟ آیا آزربایجان است که به عنوان آزربایجان واحد مطرح میشه؟ یعنی بخشی از گهگاس بخش آران یا اران یا امران و شیروان گفتاز که نامش رو در سال 1918 اگر درست باشه 24 ماه مارس به نام آذربایجان رو یا نه آذربایجان نام به قول مردم دفتر عباس زرگاه و و بسیاری از محقیقی من اسمیشون رو نام بردم بسیاری از محافظه دیگه که منطقه آذربایجان رو کاملا مشخص کردن با استناد به مدارک که از این کاملا مشخص که مدارک به استناد اسنادش که حدود و مرزها مشخصه رود عرب مرزی بین منطقه قفقاز و آران و اران و منطقه آذربایجان حدودش از شرق و غرب و جنوب و شما کاملا مشخصه منطقه آذربایجان گرچه در چه منطقه اران و گفگاه که در واقع اران و یا شیروان بخش جنوبی گفگاه هست این منطقه در طول تاریخ در بسیاری از موارد از نظر اداره و نوع حکومت قابل بوده به ایران بزرگ حکومت مرکزی و مثل شهرستانی برای یک استان بوده نسبت به آدربایجان گستهال فراوانی هست اما این مرزها باید روشن بشه حالا بگید چرا باید روشن بشه؟ چون اگر این مسائل نبود همه جای ایران سرای من است. چه فرقی میکنه؟ شیراز و سیستان و بروسستان و خراسان و کوزستان و ایلام و نمیدونم بندرباس و همه جای ایران چه فرقی میکنه برای ما با آذربایجان هیچ سفاوتی نمیکنه فردا اگر به ما گزارشی بیدن که از مردهای سیستان و در دشمن هم کرد همه ما باید دیدیم کما این که در گذشته رستیم و در کما این که در گذشته آمدن هم کما که در دفاع هشت سال دفاع مقدسمون از تراسر این کشور ما شهید داریم در خوزستان با این که مثلا مثلا در دور افتاده ترین خراسان و سیستان و آزربایجان و همه دفتن اونجا شهید شدند این انسجام ملی ما و اینکه این, این کشور یک کشور واحد و یک پیکره است چرا این مطرح میشه وقتی که یه توطعه ازشیا وقتی که در این نامگذاری دنبال یک چیزی هست. ببینید این بحس نامگذاری در طول تاریخ بسیار مهم بوده در یه نمونه کوچکی به شما عرض بکنم، در هندوستان انگلیسی ها آمدن یک کار کردن وقتی که میخواستن از هندوستان بیان بیرون صد تا مسجد رو لیست کردن بس اینها رو اعلام کردن به عنوان اینکه اینها در گذشته معبد بودند معبد هندو، تمام همین یک کلمه رو گفتند و تمام شد خودشون زدن بعد دیگه دعواب، چند سد ساله؟ سد و پنجاه دویست سال دارند هندو و مسلمان اونجا رو اونجا با همدیگه در نظا هستند و میکشن که همدیگ رو آخرینشم این مسجد بابری بود که بعضیاز شماها شاید سهمثالتون قر بده که یادتون باشه که تخریف کردن این مسجد چندین بار تخریف شده چرا به جهت این که گفتن این مسجد قبلا معبد بود سلام همین اجازه بدید جهت تنوم که شده در شما یه مثال ساده بزنم من یه عقری دارم که ایشون ش مذا چند تو بونه بچه های ما اون وقتی که کوچوللو بودن ومثل 5۶ سال هستزار سر از صختهکیام می شدن این اخبی ما گشوب میذاشتند دی خاانما بر برای تذا خودن حالا تا بچه رو بکنید که تور رو تصور بکنه که این قیه ما با یک کلمه منقدر رو مت چند می کرد میدونید چیکار می یکی از این گشگاه رو بر میدار که گشوب من قشگومگیر بیم. همین، قاشق من بوداره، همین، آگاه همین جمله رو میگفت، تمام شد به هم دیستن این بچه ها این رو نه قاشقه من، این نه قاشقه من، این قاشقه بدید من دعواش رو میشد جایی که، جانعه این که سطح آگاهی و اینها کم باشه، اینجوری مورد طمعه بیگانگان واقع میشه. چطور که من همین مثال کچه اونجا به یک کلمه این بچه ها رو نظم خانه رو همه رو به هم میزیده این قه در جاهای مختلفی همینطوره وقتی اینها آمدند نامه بخشی از خاز رو آزربایجان نام در اون زمان بسیاری از نیروهای چه مردی چه مذهبی چه دیندار چه بیدین کاملا مشخصه الان من به شما میگم که به خجا مراجعه بکنید و تفصیر غذایا رو ببینید اونجا همه اعتراض کردن از مظلوم شیخ محمد خیابانی گرفته تا احمد کسروی و بسیاری از این یعنی چهره مختلف چه دیدین، چه دیندار همه اتراف کردند. چون میدونستن که این نام بذاری فردا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد شما خواهش می الان این رو دوستان نشون که آذربایجان در مرخیز تاریخ نگاهی به مواحس ملیون ایران و درای باکو در تغییر نام آذربایجان. سال هیزار دیدسنا له این رو من به شما عرض کنم که این کتاب رو بخونید اطلاعات جامعه. از, از که شما هست که اعتراض یا قبول کردن یا نکردن با ارائه اسناد و مدارک به هر چیزی دارید. این کتاب رو بخونید تا اعتراض خودمدن به دستتون بیاد در این زمینه. خب این نامگذاری رو چرا اینجوری عوض کردن؟ تو کار داشتن با این نامگذاری که بعداً یک آزربایجان واهدی رو ادعا بکنن دنبال یک تجویه باشن علتش این بود حالا جذبی در اون منطقه درست کردن بندرد میکنم پنج سال در اونجا زندگی شدن و از ده سال که سر سا است خیلی وقتی اعتباسات هم داریم و رفت آمدم داریم و کاملا به مسائل هم به اصطلاح مسلم نیم روزینی ای جوانانه و دوست، ایرانی و آزربایجانی بدانیم روزی می که سبها و هزارها بار از جرائه از تلیزیون های باکو ادعای عرقی نسبت به آزربایجان ما نشه آذربایجان نگر آزربایجان جنوبی شمالی جنوبی شمالی, جنوبی شمالی. آزربایجان بیروسون نشه به تدریل خب آزربایجانی که اونها ادعا کجاست ها. من به کتاب های آوردم و تصفیلانه بارم سنگین بود نتونستم. به شما بگم اینجا. بدانید که میگه علم و آگاهی درم با شما حرف میزنم. بنده رفتم در باکو چهار سد و خنجاز دولار کتاب های دانشگاهی و تصفیلی اونها رو در خصوص تاریخ آذربایجان خریدم و آوردم. نقشه هایی که به قول و خیال خودشون آ... داره تصفیلی باشی. باشید. این مثل داست گفتن که ما از حقوق آذربایجان دفاع می‌کنیم واحد آذربایجان قورولتایی که حالا چندین سالی که با حضور به کنگره بزرگاش که آزاد کنگره آذربایجان سال داره برگزار میشه که یه وقته الهام علی حیدر خودش شرکت نمی‌کرد هم الهام داره شرکت میکنه. این معنیش چیه خاطراتی در این زمین هست، فراوان اگه من بگم براش نقد بکنن یک در همون زمان قیدر آقای دکتر ویلایتی که وزیر فارزه کشور ما بود در اون وقت ایشون ملاقاتی داشته با حیدر. در اون ملاقات حیدر برمیگرده به یه شوخی نیشتار. ایش میگه که بله اینجا ما یه بیمونهی داریم میگه که چهل میلیون همزکن ما اون رو زندگی میکنم. آقای ولایتی برمیدرده که شما یه دیونه داریم ما چههل میلیون آقل داریم که میگه هیلده شهر جهاز رو به خود ما برگردیم حالا به شما عط که اتحاد ما ایران در این زمینه چه بوده که من این رو باید شما عط شما, شما می‌دونید که در جریان جنگه ایران و روز در سال هزار 243 گمری بزار 243 گمری بعد از این که ترکمنت ها این تا اشتفانه بخش ازنی از خاک ایرانمون از گفگاه از دست میره ظلم و ستم روزها بر مراقب و مصمانان به اصطلاح منطقه دستا روز به روز شده سیدا می کنن تا کار به میرسه که اینها دست بدامن علما و شاهان و امثال و شاه گازار میرسه. رسه فتحالی شاه گازار نیاز و از علما اتسنداز می در اون زمان چند نفر از مراجع اغفت. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن نجفی. مرحوم آیت الله آسید علی که صاحب ریاض بش می گیم. مرحوم آیت شیخ محمد مجاهد. مرحوم آیت الله شیخ محمد مهدی نراغی. این مراجع فتوا بودند، دن. فتوای جهاد. و مردم به جهاد بر خود مرحوم سید محمد مجاهد و مله مهدی دوتا دو مرجر اینها میان جبهه دقت مثل که در زمان ما در نظر بگیرید که مراجع فتوا بدن خود مثلا آقای مکارم و آای نوری احمدانی بلنشم بیان جبهه چه اتفاقی میفته معلوم مردم مثل سه از همه جای ایران دیگه دست آزربایجان نبود از اصفهان و شیراز و بندراباس و از همه جا خراسان مردم میریزن برای زنگ با روز اون گفته رو ببینید در کتاب های مرگوطه یه بخودش خب این گفته اونجا به اصطناع اتفاق میلوسته و اون گفته رو در که در های که داشته و اینا نمیخوان بارد بشن به خاطر زیگه وقت این گفتاز رو وقتی که جدا میکنن و نام آزربایجان برای بخشی از اون انتخاب میکنن این خواب تذبیه رو برای ما میدیدن چون بحث تذبیه دقت کنید یک زمانی تدریه نظامی، سیاسی، جغرافیایی در کار بود اینها را استعمارگران چند, چند دیدن که با تدریه نظامی کار حل نمیشه همین منطقه گفتاد رو وقتی از ایران جدا کردن تا 50 تا 80 سال بعدش مردم منطقه گفتاد خودشون رو ایرانی میدانستند. در آرزوی ایران بودن، ما از و اشعار یا شعران هزار سارگرد داریم در وقت ایران وطن من از نظامی جنزدی و امثال اینها و بعد که در سال 1908-1913 بعد افتحالی فرهنگی شروع میشه اون وقت که این آرمان ها از بین میره و منطقه دفعات رو آذربایجان میگن و برای شعر و سرود و نمیدونم ترانب و محام چه بو چه بو چه امساار اینها درست میکنه؟ چی چی چی؟ سب کنید سرماسه ها که سرماسه ها کانون تمام به شضاعت مثل که شاق دی و شش هستم سب کن سب کن سب کن سب کن اشون که میگه مقامی باید بدونید که من طلبه هستم سه با حابیل نیزیو، با حابیل آوایی، با یعقوب محمد با همه اینها نیستم مجبور بسدن. دی با مقام اینها رو میدونم، زیبا با اشعار اینها رو میدونم. کی دوباره جزعلیم سند و نامزالت دل؟ نجات میکاریم. توام اتحادانی اشتباهتیم اینکه دیار میکنی که دیگری بد جوری میدونی. این جوری نیست. من یکی از او تایی هستم که کش کنید. اگه اشتباهی من اینه که هیجان و احساسی نشید هر کسی میگه راست ای این نیاداره که هر چیزی من مصدرش رو گفتم، گفتم نه من تنظیم کردم. بنده جوون کسالی هستم که در و تیم احوال ظرغامی و به همه اینها بارها تا کردن که یکی از بهترین ویبراتورین و استی سر موسیقی‌های ما موسیقیه مقام مازریه. شما اصلا نمیدونید که شما باذ نظرت نه در دفتگاهش. و نه در نمیدونم اشعارش و ندرد نمیدونم تا که اندازه وارد هستید ولی بنده به عنوانی طلبه هم واردم هم هم خوب میشناسم هلال و حرامش میشناسم اصلا بنده در باب به بحث مصیبی یه بحث مفصل فدید با تفرید به اصل گذیه هم انجام دارد مطمئن باشید شما شما احساسی نشید شعارهای احساسی ما رو بزار نمیرسونه یه وقت میبینیم که شدی تو اح به جا و به جای خود ما باید در وقت دنبال همین نقاطی که شما میگید باید باشیم، خب برگزه توخان ما این حرفات چیه؟ شما اگه خودتون رو من هزار بار بیشتر از شما به آذربایجان هم خدمت کردم به زبانشم به موسیقیشم به همه اینها هم خوب بلد. مطمئن جانم. خب. درست کنید. نداره؟ ببینید من یه چی به شما میگم بنده هم در همه حضور همه شما بنده چه با پیش شد چه, با... چه بدون پیش شد چه در جای مناسب چه در نام نامناسب چه به مباهسته مناسبه ازافیه همه اینا را در فرمش خوش کنید گفتید من درخل. شما و من مناظره و جزئیاتش رو مشخص بکنید در برنامه آتی که هستیم شما چه میگید خوش کنید من اینجا سخندان این مجلسم شما سوالتون رو بفرسید مام هر رو می‌شنویم. جوابم میگید این؟ نه خوش کنید الان من خب باشید نداره قبول نداشته باشن عزیز من، برادر من، فنانی، من, من هم از شما توقفه این چنیلی ندارم حرفای من رو بشد من میخوام بگم که شما چوهی دارید از اون بعد نشنوید این حرفای احساساتی رو اجازه بدید یک حرفی از این رو دشنوید من چقدر یکی تازه به اسپیکت بارک شدم؟ آسانه یکه هم رو بالا روبرید من همه این مطالب رو خوندم، آقا، همه این مطالب رو دیدم، خوندم و اینها رو میدونن به فصل له شما نگران نباشید از منبع و اسرشم در برگردین به بحث نامگذاری آذربایجان. وفتی که اینها میگن انوری حالا بهخاطر که تنوعیم بشه انوری شاعر کر ششم هجری ایشون خب شاعری بوده بسیار نامی میدونید و میگن آدم هم بوده یو بود یه روزی از شهر میگذشته می, می که در وسط میدان ی می کسی بلند شده و شعر میکونه دورشم گرفتن این جلو و گوف این شعر مال گفت مال انوریه طرف گفت. این هم گفت خدا خدرش رو بیامورده آدم درستیه گفت شاعر چیه گفت خب انوری چیه؟ گفت من خودم خیلی خندش ما شعر دوز دیده بودیم شاعر دوز نمیگه حالا میگن آزربایجان میگیم خب آزربایجان کجا طرف برمیگرده از رفتار میگه من مثل داستان انوری و این محل مناقشات منابش میشه رضیشه های ویژه از اینجا درست میشه. خب این دوم هم به خاطر اینکه این در وقت خب بسید تدریه سرهنگی رو من میگم وارد به اصل مطلب میشه آیا نه اصل مطلب که نظرمیه بحس انرکی بحس بابتی که شما ازش اسم میبرید واقعا یک سؤال بزرگی که در این بحث تزبیه فرهنگی که یک چیزی برای ما درست بکنند که ما از حالا خودمون رو تافته جدابافته بدونیم شماها الحمدلله جوانان معددی هستید من با جوانانی نشستن بسیار تند بسیار حرفهای زننده هم میزدند ولی وقتی که با برعکس در که مدارک رو ارائه کردین بعد که منصف بودن متوجه شدن نیست البته منم گاهی استفاده کردم منم جایی که مثالی بزن این تذکیه فرهنگی که اتفاق بیفته همین میشه شما از وام شکررندی چه میدونید باعث سؤال من اینه یه دو تا سوال میکنم منبع هم به شما ارجاع میدم بعد منبع خودتون رو استفاده کنید رو در همین منبع پیدا بکنید من شما اینه که آیا بابت خررمدین قهرمان است یا جنابه تو ببینید این نشون غلطه آی غلطه یعنی شیوه غلطه بسکنید شیوه غلطه ما نباید اینجوری عمل بکنیم. اجازه بدید من در مورد توضع بکنیم. کنید بابت خررمدین یه شخصیتیست که در ساله از سال 211 تا 223 هجری کمری یک, یک نهزتی رو بفات کرده خب در مورد دو تا غذابت هست ازده میگن این یک جنایتکاره ازده میگن یک سهرمانه ما باید چه رو کنیم در این رنیه اسناد و مدارک رو باید ببینیم؟ احساساتی بشیم و بگیم این که من در حالا اون برادر عزیزی که به من گفت که از این حرفا اینا رو زیر به خاطر این میگفتن ما اگر قهرمانان و بزرگان و شخصیت های علمی معنوی و سرداران رو در آزربایجان بشناسیم و بدانیم دیگه نمیاییم چشم چش بسته گوش بسته و با حرف یک ما بگیم این گهرمانه یا اون جنایت کار باید ما بنده هدی تمامی منابعی که در پتوس بابک چه مخالف چه موافق گفتن هم رو کنده هنه رو دیدن چه موافق چه مقابل هنه رو دیدن شما اگر به اندازه بنده شما برید منابع رو ببینید هنه رو ببینید قولده دو سه تا سوال محبه میکنن به شما یک بابک دارای چه نجابی بود سوال از همین بابت دارای چه نجابی بوده دو بابت دارای چه زبانی بوده به چه زبانی که کرده چه خواهش میکنم دوستان من ببینید من خسته نخواهم شد من از دستی هیچ کدوم شما که عزیزان هستید ببینید از این زبانی کرده هر جور هم به تا بزنه ناراحت نمیشن تو خدا قصم من عمرم رو گذاشتم سر این که این نفتر رو برای اون جوان عزیزی که داره از دستمون با این حرفان میره روشن کنم هم خودم روشن بشم هم روشن کنم برای آینده من ناراحت نمیشم نگران نباش اما من میخوام بگم که بگذارید به نتیجه ای به بگذارید منم دلائل خودم رو بیان بکنم نفذیرید من که گفتم بفذیرید نفذیرید اما عزیز من برادر من اینجای مجلسی که من سخنران این مجلس هم. نه که شما سخندانید اگه شما سخندانید بیاید اینجا بشینید من برم من سخندان این مجلسم من یه کسی هستم که سوالها کار کردم خب ثوابت من رو گفتم دوستان من ایدی نداره سوال بپرسید مشکلی نیست که شما هیچ وقت باید مراهزه بکنید این مسائل خب بابک چه نجانی داره بابک چه زبانی داره خب این دو بابک دیرش چه دینی بوده بابش به اصلاح هدفش از این زیان چه بوده؟ و بابش چه چرا، روشی چرا رو در زیان خودش انتخاب کرده؟ اینها سوالات سادهی ای که من دارم به شما مطرح میکنم. دماثن. یکی از منابعی که دوستان آیان خیلی ترکید روش دارند و تحصیح خوبی هم هست ستاب اصلاح بابش فرغمدین دلاور را آزربای جان مان آقایی فعید نسیدی این کتاب، یک ای کتاب کتاب‌های خوبی. آقای سعید نفسی که نو مآخذان و میثاندگان پرخاره، این سنتاتابوه تحقیقات خیلی زیادی دارن. نویسنده پرکاری هستن و از بحث فو، ایب ایبو ارادی هم دارن که الان به شما تاهم بود. خب وقتی که یک موردی رو می‌خوای تحقیق بکنی، اولا به مطالب و مدارکش راه می‌کونیم. و ثانیاً شخصیتش هم خیلی دقیق. آقای چند نه چطور می‌بینی؟ تا ما بدونیم آیا اون اصطور تازی که برای این آزربایجان واهد انجام میدن با علم کردن بابت درسته یا نادرسته؟ یه وقتی که به اینجا برسیم که نادرسته این آدم آدم جهرمانی بوده ما بیایم از نفره سرفتیارانیشون بشیم یه وقتی که نه ما به اینجا برسیم که نه مشکلات داشته این آدم مشکلات این این این این چه دلیلی داره که ما بازم به چه دلیگی داره که ما بازم بگیم که این آدم خوبیه؟ مثلا ساعت کنید که مثال از این باب بگیم نمیزنم به خاطر اینکه دیگه مطلب واضحه خوشون که تمام رو بگید دو من کنم خدمت شما در خصوص دین بابش یکی از مهمترین منابع و مسللمترین امری که در مورد ایشون هست اینه که بابش دینی. یعنی مستمان نیست همه کتاب و مدارک به ما میگن که ایشون خورمدینیه جواب آقای سعید نفیسی که خود حرفتار و خود ارادتمند این شخصیته ایشون میگه که وی معروف طریقه بوده است که در ترویج مذهب خورمدین یا خورمدین و یا خورمدینان کشیده صفحه 18 هموندید ندائد اینها الى ماشاءالله همه ی مدارک دارن اونزو میگن هیچ کچه از سرورانی که چه چه مخالف. در حصوص بحث دین بابش، مسئله خلاف این رو تقریبا نگفته. همه به لطفا میگه که ایشون خررمدینیه. خررمدینی هم چیا هستن؟ چه دینی رو اون چه که مستندم باز اینیشه. خررمدینی، شاخهی، حالا به تعدیلی، دین مرزچی یا خودش یک اعتقاد مستقلیست که به تناسق قائله، به یه چیزی های خاصی و در باب دست حلال و حرام هم دیدگی هایی داره اسباب معتبری در دسته که خود با مورد اعتراض خزرنیان بوده یعنی خود خودشون معترض بابش بودن به خاطر اینکه برخی از حلال که در مذهب و دین خرمدینی بوده یا ها رو زیر پا اینا جزء این به اصطلاح خوب خب در خصوص دین ایشون البته من که این مکاتبات رو به شما ارج می از شما تقاضا میکنم همین شکایت رو بخونید خودشون در بازار هست و همین سوالاتی که من در شما کردم خودتون ارزشش دارید چطور جانور استاد به ما در ورثه مختلف سوال میگی اینکه اینها رو پیدا بکنید خب همین رو بگید خودشون پیدا بکنید خب پس ایشون از دینی این بوده از روزره مردیت ایشون چه ملیتی داشته؟ آیا ایشون ترک بوده یا ایشون نجاد ایرانی داشته؟ در باب تاندانی ایشون مطالب زیادی هست. بازم ایشون اینجا آورده امهات و سرپسله های رو شما میتونید بازم مطالعه بکنید. این منبع و منابعش در آخر این کتاب همسنا اکثر اون منابع دسته اوله بابک شناسی رو معرفی کرده. شما برید بگونید که بابک شکلی بوده ایرانی و آذربایجانی خب، حتی بعضی ها گفتن این ملویت ایرانی ایشون او رو تا حدی بردن که در جا گفتن که از فرزندان به اسلام متحربنه، حاتمه، فرزند ابو مسلم خراسانی که البته همین رو رد می خود سعید نفسی هم رد می کنه. خیلی دیار این حرف. بگن این حرف درستی نید. و بعد از وقت جناب آقای سعید نفیسی ایشون به جایی میرسی که میگه اصلا برای اینها مهم نیست چون اینجا جاییست که بلکرده چون اصل و برایشون نبوده و چکی نرد نکرده ایشون یا در صفحه دوازن میگه مردان بزرگ چه حاکت که ما از پدر و مادر و خاندانشون باخبر باشیم. یه چیزی که ما از ایشان میخواهیم این که از کارشان مردم را بیا بازنی. به همین جنگ اگر از سوناتا به بابش خوردم از از سوناتا به بابش خوره آغازی یه نرسیده از مگان بودند دیگه نیم کار کردند ناروشو از داره نبودم دستیامو شکست کردند که دو دیدن خب ایشون دید شون از داره ها اینطور بوده ایشون یک ایرانیه تا انجامش شکست کرد یک ایرانی خب بابش چه زبانی صحبت میکرده بابش به زبانی ترکیم. او سلما صحبت نمیکرده. چون در اصلی که ایشون زندگی میکرده هنوز ترکان به این معنا وارد منطقه ما اصلا نشدن. حالا. سهیستر این که که ما نمیده. که مثلا این رو همده در بدر شما میکنه که یک شکی که در این شما به <تصفح> تحقیل در صحبت میکنه مثلا این هم هم عبداً ناراحت نمیشن نگران نباشید من هنوز ترکش های دوران جزره توسینم و توسینم دارم نگران نباشید من مثلا ناراحت این رو مسائل نمیشم پس انا بر این بابش فررمدین از نظر زبانی کما این که ایشون بادها میگرد در جاهایی. میگن که همین در همین کتاب از سفه ۲۰ و سفه میگن که بابت زبانش با اینکه که میگره. اما زبان ایرانی را پول میدانه و در جای جا این کتاب میگه که زبان اون دوران مردم ایران فارسی، پهلوی ارمنی و امثال ها بوده شما بگید, مست... بگید یه وقتی که ما میایم با خیال خودمون یه چیزی درست میتونید ببینید من الان خیلی دوست داشتن که این مثلا یک شرمت آربالو، شرمت زنفران که چه چه اینجا بود؟ این خیال من اما یک من هیچ خود رو من یا آبه؟ من با خیالات خودم چیزی رو درست بکنم و ازش بکنم آیا این معقوله برای یک انسان آبه؟ نه مرهول نیست مطمئنه اون چیزی که اصناب داره به ما میگه یعنی اگر ما اصنابی داشتیم در خصوصیشون که بله ایشان به زبان صحیح اردبیلی، اونم ترکی به لحظه اردبیلی صحبت می کرد. من این رو به شما نمی ایشون به لحظه مثلا گشنگ مثلا فرض کنی که تبریزی و زنجانی و ارونیهی و ترکی رو صحبت می کرد. من این رو به شما اصنابی کرد شما همین کتاب رو ببینید. ببینید درباره زبان زبانیشون چه میگه؟ پس بنا بر این جناب بابک خرمدین. دین داشت که نجاب ایرانی و زبان فارسی و یا ایران. این شد. از زبانیشون. حدث بابک از قیامش چه میگه؟ همه این این که در این باب تحصیل تح... تح... کردند و میگن معاصرین و غیر اونها همین میگن بابک حدثش این بود که بر تازیان به آنها را از ایران خارج کند تازیان چی هستن؟ عرب ها. خب دو تا مطلب اینجا سؤال میشه آیا مراد از عرب همون عربی که در قالب کلاست اقباسی یا خلافت بنی اومگه و ها ظالم بودن یا مراد از عرب مرادش افلام کدون میشه اگر مرادش اولی سلطه ها هستند و عربی که مثلاً زور میکردند ادهی از اونها این چیزی بوده که شیعان هم در اون زمان ریان متعددی داشتند علویان ریان هایی داشتند داشتن میدونید که در اعتقادات علمی شیعه و ماها اصلا خلافای بنی مروان و بنی اومیب و بنی عباس همه ظالمند و همه قاسدند و هیس کدوم اگه ها در تثبت در مصرمی رو ندارند علمی شیعه رو هم به این دلیل پشتند بسیاری از علاویزی رو هم به همین دلیل پشتند بسیاری از مردم بنایت ایران و ما رو هم به همین دلیل بنابراین دین نیست. ایشور. دو نوع بیان. یعنی دو دسته در یک تقسی ما ها در اون دوران ها داشتیم یک قیامی که به دنبال احیاب به دنبال اسلام ناب بودن و به دنبال و در علیه اینهایی ادعا ادعای اسلام داشتن رو زرمی کردن از غیر امامزادگان, از امامزادگان اینها بودن و like, دسته یه دو اونهایی بودن که اینها قیام میکردن نه برای رفع ظلم برای که کسب نواب و قدرت و چه خودشون یعنی ضالل بودن. اللهم اشغل الظالمين الظالمين بود. مثلا در زمان گذشته، در زمان شاه، خب اگی علیه شاه انقلاب کردن و مبارزه کردن و به زندان و کشته شدن برای اینکه حکومت اسلام رو برقرار کنند. یه منظورشون این نبود. منظورشون این بود که یک حکومت سوسیالیسی درست بکنن. یک حکومت اینجوری درست بکنه. اونها هم مبارزه کردن. خب مبارزت خود اون یک بیان بسیاری که در این دنیا در اون دورانها به وجود اومده حتی از امام زاده شد از کدوم رسته بزن از این دسته دوم حتی ما زید و نار صاحب و زنج که برادر امام رضا علیه السلام بود امام زاده بود اما بیانش مورد تایید اهل بیت نبود بیانی بود که بیش از بیس سال اونم کشید و خیلی کشتار شد. اون مورد تایید نبود بابت کدوم یک بود؟ اسناد و مدارک نمانیشون میگه برادران و خواهران من این کتاب رو با اسنادی که ارجاع میگه همه رو مطالعه بکنید ایشون به دنبال احیاء دین مذکی بود به دنبال برفت راشتن پرشنه فرنمدینان بود و مسلط کردن مذهب فرنمدینی بود در ایران این چیزی که حالا مدارک همه در اتفاق دارن این رو به ما میگن سؤال بعدی وسته که کجا بود، فقط آزروازان بود یا نه بالاتر. همه از کار به مادرم میگن که افتداع دیامیشون از اسمهان بود، از باطنیه بود و بعد هم از شیراز که استان خاص به کمیونی، و همدان. و بعد که اینها رو کنکم دست و پاشونی کردن، اینها متنکد در آزروازان شدن و ایشون بیست در آذربایجان بوده. اصلاب و مدارکنه. رو خواهش میکنم همه همین این که من از شما میکنن از طریق همین آقایینی که دنبال احیاط بابک و ارادتمند بابک و ترفتایش. هستن همین اینها اجرا شده. به همه اینها گفته شده. سپشم برای شما یاد کردم. به اصلاح نوشتم که در چفه 21 و 22 چون وقمی و اینا همه اینها رو براتون تو میخوندن از دویه کتا شما زحمتش رو میکشید در سفه هایت اینجوری خب حالا سال بعدی ایشون روششتر به اصلاح احداقش میخوند وسطت گیانشون شدد و روششون چی بود این رو دیگه با اوزخانگرشت شما میخونم از روی مثل چفه ها برای تو ببینم در سفه 23 جناب بله 25 جناب آقای سعید نفیسی این رو بیان میکنند می فرمایند بعد از اینکه اشون اسناد و مدارک رو میگن قهمته در ادرشت به جهازی. اما در سوش کشتارها و اینها میرسن به این مطلب میگن که اما چیزی که در این میان تا اندازه یونی حضیگت میدهد اینه که به در درواب ازائج فرمیان به تناسخ و بالکشت ارواب قائل بودن و میان مزدکیان در پسیت ها را مشترک و, و مبار میشه و در ذن برای رواج دین و روش خود از هیچ کشتار و خوندیزی دریغ نکرده و بر بدخواهان و دشمنان خود رم نداشته و مخصوصا که از به بسیار کندی بر تازیان و اقایدشان داشته اند و از اینجا با محمره و صورت علمان گرگان و تبرستان و مبیده یا سفید جامدان و مبنعیان مبنعیان ماورا اوند هم عقیده و هم داستان بودن و شاید درمیانشون و مخصوصا در میان بابک و درمیان بابک پیش رو به اینان و آزرواجان و ماظیان پسر کارون، پیش رو و صورت علمان تبرستان یکتنگی و اتحاد بودن ایشون این مطلب رو لا به سراحت بیان میکن بنابر این ما به چه می رسیم برادران من خواهران من ما در اساس مدارک مسلم چند امر مسلمه یک ایشون مسلمان نبود خرمبینی بود به دنبال تسلط دینان بود به دنبال زد و بیرون کردن اعراب مسلمان بود ایشون نژاد ملی داشت ایشون زبان ترکی مطمئنن نداشت که بود زبان اون وقت ایرانی بود حالا بگید فارسی هرچی که بوده و ایشون به سرزخشش هم کشتار کنگیزی بوده این مجموعه از تطریق تاریخ از بابن حالا جناب آقای سعیدی و بسیاری دیگر که این رو مبتد تکرار می کنن اجازه می خواهم خواهم خواهم من در صورت دیدگاه هایی نظام شهر گوه در این باره آوردن برای شما بکنم همه به اتفاق کنید همه به اتفاق وقتی که خیل از اسناد و و که همین مثالی که به شما گفتم در بابت رو وقتی ما می دینیم این رو همونجا فهمت افتراق. به چیا می که اسناد دست عبت. یه نوسته یه مهمی رو در به شما اینجا عرض کنم. ببینید تاریخ به بول مظهوم شیفتین دنسلامی که باید بشنم که ایسون چه میگه که تاریخ امین خائن است و خائن امین. از یک سو ممکنه در تاریخ دست برده هایی بشه و فهریت هایی بشه که شده. و ولی از آن سو هایی رو همیشه تاریخ ما رو کرده و بیان کرده که اگر ایدم این نبود تنی روی سنبن نمی شد حتی منحرفترین افراد وزنینه تاریخ اینها وقتی که خواستن یک تابسی رو گزارش بدن برای دستیابی به مقصود خودشون ناتار شدن واقعیت هایی رو ارائه بکنن و یک پژوهشگر و دانشمند و محقق تاریخی باید از لابلای این هم درست رو به دست دیاره. این که ما ب به کسی که در مورد و یا هرچسی دیگه مثلوی میگه، بگیم همه فهمت، مثل پس چی درسته؟ شما باید به درست بودن مثلو، مسلح... اجازه بگید؟ شما هم باید به درست بودن مثلو خودتون سند ارائه بگید، سند ارائه بگید، این مشکل نروحه میکنه سند، سند رو با سند افتحال میشه کرد، جهت سند اجازه بگید، یه خاطره درهای شما بگرد صح. صح. باقید. باقید. صح. خوش سونید حالا اون گفته بود اداره سخت غلط کرده اگر دنها بشه اداره سخت غلط کنه هیچ خانه هی مال هیچ کسی نید هیچ ماشین هیچ کسی نید چون اون چیزی که اتباط بکنی این خونه مال منه، این ماشون مال منه، سنده سر بدیگه بیگه, بیگه تمام کنید اگر ما بگیم همه چیز غلطه، شد، تو ما با کداما کداما کداما درسته سند خب، در مضموع ما به اینجا میرسیم که اگر بنای ما در اینه بله، اگر ما به اینجا بگیم که بگیم که این آقا به اصطلاح در همه اصلاح در مورد ایشون غلطه بس خب پس چیه ایشون؟ جناب بابشی پرندین چیه؟ شما شروع بکنید وقت کردن، وقت شاعرانه بگید که ایشون یک سهرمانی بوده نمیدونید اندام چقدر عالی، ایشون شداعتش چی؟ اینکه نشد، این, این ساخته خیال من تو ما باید بریم دنبال اصلاح با سنت ثابت بکنید که ایشون قهرمان بوده من یک چیزی رو به شما بگم این آخر ارائزم گسته بسیار از مطالب من بود ایشون دوران سپ امام ما رو درک کرده سه امام شیعیان رو دفت کنید بابت در سال هجری دیان علمی کرده 214 امام رضا علیه السلام امام محسوم ما در سال 222 امام رضا در فوت شهادتش چه بوده آخر سفر سال بیشتره یعنی دو طرف اله سال دوران امام رضا السلام درست از سال دیستو از طرف هم طرف این دو سال خرده ای رو بابت در دوران امام رضا بیا خارج کنید هیده سال در دوران امام جواب هده این یعنی از سال ژویست و سه ایلا و درست؟ خب چون اول سال ژویست او یعنی و بیسه، ژویست و ماه یعنی هیده ماه رو تنریبند چند خب سال رو بودشت چند این ازید سه سال آخر قیام در دوران امام حادی هست شون میدونید که ایشون در سال ژویست دیامه شکست خود و به دست افشین اثیر شد آهی این یک سؤال برای ما یکی از امامان ما در خصوص باقت چیزی بسیده یا نرسیده این سؤال رو میشه پرسید یا غلط این سؤال یا نباید پرسید یا قرار کرد از دانستن حقیقه چشمگوش رو بگ گفتیمت رحمته بگیمید من دارم به شما این کتاب که میگینید مثال شیعه از الان تحصیل شریعه بدون که در دست متود و دستگاه کالایی شروعایی ما یک دستگاه عظیمی هست. لابراسوار بسیار مهمی. علم نجال، علم درایت و حدیث و علوم مختار فرای شنافت حدیث از غیر سهیی بیان شده. در باز قرآن که اینجا نامهی هست از امام جواد علیه السلام. اونم علیه به محزیاد که از بزرگان اصلاب عیلم هست. ایشون گفته که از امام جواب علیه سنن آنو که پس امام بنانیمن مطالب اینو نوشتن در باب اینکه به چه چیزها خنس خرم میگیره امام ما میفرماست یکی از مواردی که خرم گرفته صندوق داره عبارت است غنیمت جنگی اونهایی که در جنگ به عنوان غنیمت به دست میاد حضرت اینها رو میشموره جایزه رو میگیره میشمره، میراث و رو میگه بعد تا اونجا میگسه و ومثل مثل مال ما یقهد ما ما ما و لا یقهد و, و صاحب مالی که صاحبش معلوم نیست مشکل و که و ما ساره خوش کنید امام جواب برای شمی و ما ساره إلى موادی من اموال خرمیت رو تسجد. اون چیزهایی او که به غلامان از اموال خرمیان فاسد بسیده این در چه سالی این عبارت رو امام می در سال خوش کنید مثل روایت رو در ساله و, و... و جرعت و عمل کتابه و قلقی طریق مکشه با این نمبری آوچف و فیلسنتی ها و هاوهی سنت و از معتن یعنی در ساله دیویست و در اوج افتدار بابک فرغنگی امام جواب علیه السلام فرغنگیان به عنوان گروه ساسق معرفی میکنه شما اگر آدریتش بخوایید در کتابی که ترافی که من دارم ساخشتی جلدی جلد نو سخه 502 حدیث پندون این رو خودتون مراضیه کنیم بزنیم خب اینم حضید و اما یه نکته آخر رو سوال می کنیم بلی وسائل شیع صاحب کتاب سال کتاب بله ایشون در گرم یازدهم ها می رو جمع کرده ولی این تحالی این احادی تعلیفه یعنی ایشون از کتاب های زمان صدور حدیف سال دیدیست و بیسی بفرمیم آها خیلی خوبه خیلی خوبه, خوبه. این کتاب کتاب مسته. نسخه های خسی داره از ساهای گذشته شما میتونید نسخه های خسی رو هم ببینید و تازه به این کتاب اکتفا نکنید این کتاب آنستاد رو بگید به من میدونم از سوال من از شما هستیم سال گمریه سال ۱۴۱۱ ۱۰ زمنی، یعنی اینشان زود ۲۰ در چاپخانه نهر چاپ شده از میتونن شما خرید به سندهای اصلیش گرفتید همین حدیث رو از کنن شما در کافی که این کافی که کافی در درم سل سلقم صدی یعنی نزدیکترین زمان به زمان باقی فرزنی کنید چه مرموم صحیمی یعنی متادر اصلی رو بگیم یه نسکه رو من فکمت شما عرض بکنم و به اصلاح دیگه به حرفم تمام که خیلی اتر خامون انشاءالله باشه برای درد و شما سؤال بکنید از مرموم شهید به اصلاح متحرید میدونید که شهید متحرید به چند خسرت ایشون به اصلاح مشخصه. یک احاطه بر عموم اسلام دو حالبندی به اصل دینی که این بزرگوار مذهبی شهید مطهری روزکرمان یاد داشت آزاد اندیشترین علما و بزرگوان <تصفيق> هستن؟ چه هستن که در هیچ موردی کوتاه نکنند چه ملی چه مذهبی چه برای دفاع از مرزهای ایران و چه برای دفاع از مرزهای دینی در جاهای متعددی مرجونه شهید مطهری این بحث بابک رو پیش کشیده بنده یه دارم همین بست بابت رو از این کار شد با ابعادش روشن کردم اشتماع به ساعتها و این رو مراضیه می, می ایشون در سفای 28 جلد جز 24 مجموع هست می فرمایم دیانهای در دوره اوموی و عباسی غالباً دیانهای اصلاحی بودند. برعک جنبش بابت فررمدین و چند جنبش دیگر از این قبید آنگرد آروده و پرید بود که برای جهان اسلام نتیجه محفوظ دار یعنی از تنفر مردم خوبش کنید این نقاط خیلی مهمه یعنی از تنفر مردم و فشن مردم نسبت به دستگاه جور خلقای اقباطی که این نصف علیه آن بپار شده بود خواه موجب شد که مردم با این خلقا حتی هم دربی بکنند شاید علت اصلی دوام نفیه حکومت اقباطیان گیام امثال باوت بود در حدیثت این گیام را باید شانس حکومت عباسی به شما راورد. را گیام شعوبیه در آغاز بعد ادامه میدن ایشون. مسئلشون رو. این یک جامعیه. در جاهای متدره بید. ولکه اشتا مرمون شهر متحری خیلی تحصیب میکنند. در تاوردی کتاب به اصطلاع سفیه و تشتار. بله. اینجا به اصطلاع بیانید. البته سفیه سد و پنجه مدرمو زده چهارو این دو درست خوشبخترانه از آغاز اسلام تا کنون هر دست کسانی به بهانه تجدید آئین و رسول کهن ایران سروتدایی به کرده ان با اصل عمل شدید ملت ایران روبرو گردیدن به طوری که با ها و سنباد و بابک ها و, و مازیارها به دست کسانی از افشینه ها و سرباد های بیشمار هنیم که شرط شدن. ولی معلوم نیست ش گوش کنید میگه معلوم نیست چرا نقمی سازان استعمار همین آقای سعیدی چون اینا مثالی که به دخل مشخصه یکی از تناقانان رضاخان و فسرش محمد رضا اینا دیگه افتار خودشونه دیگه همین آقای سعیدی شما برید شما برید نخیصی نف... نف... شما برید مضموعاتار مساحبات کیهان فرهندی مصاحبه. م دکتر عبدالحسین حسین رو بخونید. از اوائ دست توشون ص به حرفیه شما بدید خودشون بخونید. من آدرس میدم خدمت شما. مجموعه این کیهان ها فرهننگی مصاحبه دکتر عبدالحسین حسین میدونید دکتر عبدالحسین حسین هاائری شخصیی که در دنیا م در کتاب شنناسی. بهبید نظریشون رو بپرسید. و یک سللب دیگهه هم بهم الان به خاطرم یهیا <یحیح> آرینکور در کتاب از نیما تا روزگار ما جلد سه چون اشون یک کتاب سه کتابشون از سبا ما و از نیما تا روزگار ما در خصوص جناق سعیدی خودشون با این که با هم هم فکرن هم نظر در نظر فیاسی اعتقادی ولی در خصوص ایشون نظری دارن برید خودشون بخونی تا به من نگید که تو از من به خدا آردستن ای جوان آردستن جان من و جان شما که چون چراغ لاوه سوزم در خیابان شما به خدا یارم دستم اما های و فهلوان و امسال اینها ها به ما که در دید و بند دنیا و مقام و امسال نشید در بند اسلامی و مقام و نمیدم مدیر کلی و متوسطی و جزئی و امام جمعگی وشنبگی و یکشنبگی نباشیم به خدا رسم با تمام دلم دارم به شما حرف می‌زنم. به امام زمان متوسل میشم هرگاه که به این جلسات میام که خداوند اون چیزی که رضایتش درونه به شما ارقا بشه در اینجا و من از زبانم من هیچ هدفی برای شما جز بیان حقیقت ندارم و همه هر پای من رو با سند شما چک بکنیم ایشون میگه که معلوم نیست سوال نظرم سازان استعمار این همه سرکوب کنندگان نهستهای زده اسلامی را نادیده میگیرن و تنها کسانی چون بابت را به حساب ملت ایران میادرن همان بابت بابتی که از گفتن در از خاندن این که مسئله و تمتون به ریجه خاندان محترم از میکنند چون محلوم شاید گفته و مشخصه هر میکنند همان بابتی که وقتی میخواست به ارمنستان کند، و او گفته شد پر جا خانه خودت میباشد که تو زنها و دفترهاییدین شما را آبستن کرد و از بسیار یادانم بچه دارید شما برید ببینیدی که و ببینید که قضاوت شگ در این خصوص بحث مال خودشه به وقتی و ما میگه که یه بار اینیدی حسی رو آقای بحثت میگه متحری میگه یه وقتی که اسلام در که به دست آوردن مصلحتها دو رو دو نوع راه داره دو نوع راه داره یک یا باید خودش در اهل تحقیق باشه یا از شاهدان صادق این رو بپزنه شیخ مطهری بدون هیچ تردیدی شاهد ساده است که با خون خودش و از صداقت خودش سکه گذاشته. آخرین جمله بر ساحت من و دیگه تمام من میگم که برادران و خواهران من. اونهایی که اینجا هستید و برادران و خواهران من که اینجا نیستند و در تمامی ایران و گفتاز عزیز ما و مردم بسیار عزیز ما من عمر سرد کردم برای گفتاز فضل الهی. به انایت الهی. علما و بزرگان اونها رو خودشانا به وقتش میدینید و خواهید دید. به همه میگم میگم چه تناسبی دارد با بچه غیر مسلمان کافر خردمندیه ایرانی شجاعانه به دنبال هدت در انداختن اسلام و احیا کردن مسلک خردمندی با روش های کشتار که امروز در این عصر جهنمان من خوئے جوانه، ایرانیه، شیعیه، مسلمانه، اردشمداری باشه که تو دنیا میخواییم چه کنیم؟ اردشانی الههی و ملی خودمون رو ثابت بکنیم برای این من جواب پیدا بکنیم و سلام علیکم و با من را به درسته این Chanlardım geceler aygünlükler denizinde. Sırpınardım evnetsin, bilgin şanlı düzünde. Parlayardım bulut altındaki parlar güneşim, nûh kayavından. Uçaraldım çalarğından. Söz ya bir var, da yakın. Bu karanlık gecelerde bulut altında göçermiş güneşin tek sarangı var. Ögeler fatih'in kuruşu göğlerinde kuruldu di uca baş. rəhberin ürəyi nə danışdım nə çalışdım ürəyimdə alışan da yüksəlir könlümdə ocandı öldürəm baxdı gözündən əqənin maşı qalındı bir də gördüm ki bütün ölkəmizin faqil par... gəmləri çoxu ürəyimdə yığılıb xastalanır bir də gördüm ki bütün haqlı mədlər könlümün qan dənizində al al ağlar yanıl bəndə şairədə. ونم نکده شهری ترکیه. دکتر، دکتر. دکتر چقدر؟ خیلی خوب. دکتر چقدر خیلی خوب. خواهان باست اجازه میدم بیان کنم مردم شهریاران این شهریه. سه هندی جاتی، با خود این شهریاران. شهریاران حالا به احترام مردم شهریار، این شهر با یزشیان 1000 باشیم، نهیک نشیجان. بی نیستند که سوچیه زنده باشند، نهیک نشیجان باشند. گذشته کالجیات سوچیه مردم در سال 1300 هفته یک این میکشی رو میکنیم. سهندی گفت نه کار از Paşa Heydar Baba pek karnı doluklarışsan, solukak çoldu bu telli savaşarken barışıksan, gözden hamalarını sepe semavafa diyersen hala ağ tükürün yazda yaşır darmak diyersen. Galibdir Şehriyar niyetsiz buca, der destişin in jüre. ki, der çapay kishinni ke kushkani nigir ta'did sal o tehrand azizim ya ki bir turkede hemmem olan iran azizim yok bu bir bu din davasıdır dünya ki iskonder azizim tüm sana düzlük daha sağlamdır biz atran din qatanda bizi imandır azizim hər nə salmand ümmətin haqıni mən tək lələciyanım azizim hər Qoc can Bir bizim dərmanımız musiye İmran rəzizim. Cəladət sifəti yox. Aliyə Quran rəzizim, o həm ohami dəstlərə dərmandır rəzizim. Bədin azad burada bir cavaz soyuşan elimin bir qalağı miskiliyəm miskil Miskidolsan da bir əbədi sözliyəm Elməni axıda Elmin fasta da dertini söyleyemiyorum doğru ne karamlığıse emaske diyorum ben. ki bir bir ak mı, bir öz از این طرف کنم به که چیستن ایلو بسان دیگه تنید پایدن به و به ملیت روزیدید امیزا دوزگیم منادن شهریان اولان اون دیگه من او او سرده به پسرکون کنیم هایی، و چند از در این شده ما هم تبدارم به که داشتیم، حرف نمیزنم، سابقه از که در درن من دیل نبنم اون میسه، سابقه از پیسی که اینگیز عدالت کامل بودی که اینگیز اول ما هستم، فقط یک مسئله ای که عرض بکنم عزیزان فقط یک سال میتونن بفلتن و دو زمان می موبای دو دو زمان هایی یعنی تو دیگه بیشتر زمانی پیدا داشته موید هستن कैंडिडेटو قراره. غالبا میگه. اینو به که توش شرم و بالا خودشون و خودشون داشته باشه. چند دیگه فنده نمیخواد که دو دیگه شما نامه کسی رفته کودکاشان سامشون، انشالله خوبی شوند. اما زمانی زمان و تشکر از شما. اولا نصرات به عرضش های اسلامی با تایده سری محصولی نره این و از نسبت به جنگ نر اینجا جنج؟ جنج نر اینجا توضیح فرمایید و اینجا حضر از انقلاب اسلامی یا قبل نرون چجور عمل کردی که برمان سر ایران شده؟ کشده؟ محصولی محصولی دیک های روشن. همه روشنه پیامبر فرمود اگر کسی یک ذره تعصب در دلش داشته باشه اصلا مزه ایمان رو نچشیده. در مورد اعراب حتی خود قرآن بر رسولا تذکر داره. فرمود لا با فضل عربی دین اقل اعظم دین، قال فخر لا انا بن انا اجری در عربی هیچ این دو چه یک روز در آثار خودشون به سراحت میگن میگن که ما معتده به دینی هستیم که قومیت کرایی رو ضبطه از شایی لایم افلامی میدونه و باید در در درابرش موزه داشته باشیم روایات و آیات همه مشخصه کنم این از در سوص حتا در سوص عرب آیه رو میدونید عربها ها خب به تعثیب گریده که گومی خیلی مشهورم بگه یا آیه نازل رو اعراب آر، تو کفرن و نفاقا و از در او اعلای علم حدود ما از در او اعلای و اون از در او اعلای نبودن او رو تخته اکر این آیه رو بزینید در این مورکه توبه در سوص بحث نرمستاری. بدانید و بدانید در بحث نرمستاری یکی از مهمترین ابزار نسوز دشمن و شکستن استقامت نزده ها بسوی دامن زدن به مسئله گومیت هاست هست نو سال قبل مقام معظم رهبری تذکر دادن ایشون ترمی بندران روی قومیت کار می ما از اون وقتایی که داشت یعنی دوستان را بنده خودم دارم خیلی از اشخاصی که زمینه ها کار می به آذربایجان از و ترکیه و جاهایی دیگر افرام از مشخص بود که این ها دارم قومیت کار می کنن. من تا اکیرا در احواز بودن. در برنامه ای در احواز بودن. حتی می دیدم اونا، اونا می که به ما عربا چه اصلا توضع از اون به در آدمان پرد ما رو که آدم احمد دار میگرد دلورا به اون به او مشهرت این گریان نه این چیزی نیست که از ما که هم بمینه و که اینکه آزربایدان کرده آزربایدان به هم در لاحظه با تمام افتخاب عشق با تمامی وجودم هم دارم به شما میگن آزربایدان و ما هم رضا سا و ساده و سوا تاکیه سرداران و مردمان آزربایجان به گذری مشعشع و نورانید که مورد اعتراس همه فلیز عالمان منطقه ما، آلکان منطقه ما، سرداران منطقه ما از یک صداقت و صفایی ریجه ای از یک جانتاری و جانتشانی ریجه اینها شدن در رفت کستهای فراغانی یعنی الان همین که این مطالب رو دارم به شما میگم مثل سطحی داره از اون خاطرات در ذهن من تداعی میکنه این شده که آزروازان شده راست ایران و لاگوب در نام که ایمام صادق میفرماید در روایات هست و امسال اینها چون یک دارند، دارن یک دارند، دارن هیچ استعدادی دارن بلدسته همه اینها در راه خدا بودن به فضل این هایید خودم اختخاره و این ها با این و دین ما نیست وقتی که دروت مثلا برش کنید مثلا نرد بکنم بند حافظ گرآنم بگم که بند حافظ گرآنم به هم دلاتانا و نعمش خدا اون هیچ طول ملاقصی نداره بله در جشت وقتی که من این حافظ گرآن بودن رو به عنوان تقضب شما بسترونم این میشه گرد فتا ازروائجان بست میدیت و رمیت هم نبیدیم نه پشکتا فتا خانم شیری میزاد سوالات کسی هم ما در بینه دو تا شبایی یه سوال هم خانی پرسیده این پنجده ایم آخر اوش و این آخر برانوگیت بسند. دفعا. سلام هر میکنم. خدمت مهمان محترم، حاجبان بولاری و همسه این حضور محترم. حاجب با توجه به بیانات رهبری که اخیرانا این بیانات کردن مستقری کردن، مستقری کردن، های دیگر اقوام رو حرام کردم. کردن. ولی ما متولیان ما و مسئولین تحتکانه، مستقری فرمنگی و مستقردین و فیلم های، سینمایی. در شد همین شد، همیشه نفسهایی خط پایی جامعه مثل رفتگرد و چاکم بودند و برای آزرگه ها از به ما بدونم عملکرد و دستگاه های ازرایی، مثل صدا و سیما، وزارت فرنگوه ازرایت در این زمینه است و ما برای بررسی و پیگیری این مساعد در صدا و, و, و, و, و, و, و, و سازمانه های مراده بکنیم. شوال بسیار خوبیه که شما از بکنم که این اتفاقا من از دل ارائیزا نمی پستم یکی از مشکلات ما خیلی من نکستم این دستگاه های یعنی دستگاه از همه نه. قرم دونه کارای خوبی که مسترسات سر جای بوده. ولی اگر این روشنگری ها و این حراست های ترهنگی <تصفح> نیشد شاید ما به اینجا نمیرسیدیم این, این مشکلات رو نمیداشتیم که از یک ما متاسفانه گود بدگیت همه رو بکرن این مشکله هست این اشتباه هست بنده خودم جز اولین موتر اضامه هستن هست که مجالی یه رو در یه جایی در یه جنب بسیار مهمی اعتراضی که بند میکردن اونجا دراتون نقل میکردن و امتی اقتصاق به بحث ترک نداره گفته میشه؟ را تا راي گات بنیاد گفت گفت بود تلاش خواهند کرد. پوشونی پوشونی باشتنی تر. تا اینکه دست و پوشونی نشد چه همین کیسهی اصیلی که در مورد سفری بیشومت ببینید که حساسیتی رو صحیح کرد. بنده بهمانی که گفتی که کار امینه، تو این کار کردم موفق خ سند گفت استخاره ما شرموبه هست داشت که چنین یک تدبیر از علی پاشا که تبریز شیعه واگرانا نمره در سال 95 شاه جوان تصدی از درب دیر کرد در سال 907 پاشا کو تدبیر در از و تا سال 962 هم تدبیر پاشا بوده و البته گندون کار من تنجوم خاندان عظیم الشان سید تدیو گیرشاه در این فضا که افلاق شیفتی و, و اینا که همه دستان زید و دستان شیعه هستند در ازدویل بوده تا اون که به شما اعلان کردم. بله اینها رو دارن دامن میزنن بالاتر یه روزیه بیگن یعنی ما رو حتی شهر بشن روستا به روستا درگیر میکنن اخیرا یه موجی درست شده بود در اردبیل ما یه موز جک دروت کنه برای احالی محترم موها نه فاید شدن من در ساعتی بود در اونجا می گفتم یه شفیه هم می شدم ببینید من از خوشدوگی از مثلا خوشدوگی و مثلا شوق تدریه شما دماغوان و ترهادی شما دماغوان استفاده میشه و باید از طریق خودش هم حتما نمانت بشه از شما این سوال که رسیده با سلام امروز ها خیلی زرام ها پرکش در مورد غزب کمونی نظام نصف منطقه آزربایجان رو باشد. یعنی اکنون چرا در آزرباجان حدیث زورت صورت میگیرد مثلا مانگرام های به زنگ آزرباجان و و موضع نظام یا ارمان ها ترچول علت گذاشتند. یعنی به زبان مادری، اینکه که این همه سرمایه های طریقی آزرواز هم توسط دولت جمهوری اسلامی چه می شود و کجا سرک می شود؟ پر اصلاح از بسید کشور بسیار کم تر های با تشکر. که می که چند تا سوال می مهم بود درست. ما همه اینها رو به شما یعنی همه اینها رو کار کردیم با ارکان و ارداد همه که معنای کار کردن هم رد این مطالب نه یه جاهای درست اعتراض ما علما روحانیون کمتر بزرگتر متوسط همه یه چیزای مال مال هم آزربایجان م نیس شما برید سیستان و بلوچستان انام یه مطالبات دارم خراستان برید مطالبات دارم لورستا مطالبات دارم یه بار یه بکنیم از شما ایران رو بگرد همین ایران رو بگه من یکی از خراکی کردم همین رو دستم شیراز. دستم شیران شیران بگم تا اون وقت ما که شکست که همین ها جواب داره بقیقت هیچیش عبر کنم بگیران رو احنامه میدم با همون نرشتار کنم اون که به دستتون میرسه ایشان دست گرباق و گفا دست گرباق و آران و شیروان بگانید من به شما میگم <تصفح> به زست ما در زنگی گرباق کمک نظامی هم ده همسایم به هیچ به خدای عالم دسم که شما برادران عزیز من دارید این حسن نزدید نمیدونید سردادان استفاه ما من صورتی دولتی هستم حسن من امار خودمه رفتن و لفشه های جنگی نیروهایی های مهمات و همه چی کمک کردیم راستی چرا اینقدر مشکلش رو حل کنه اصلا این مشکلی که نگا هست که از اونجا نور موخره کجای تعهد شما بالا تا اینا تو با خودشون اینا با همدیگه معاملات دارن آویز دارن اینها با همدیگه کجای کاری شما می خواهد مشکل قره هر بشه ما شما که هر کرده چیا سرداران خود ما اسم نمیخوام بیا راحت باش شما میشناسید اون موقع معلوم شده بود رفته بود با فرمانده نیرو با وزیر دفاعش و با خودی نگردی با همه اینا جلسه به من میگفت که کلان می درجه به من گفت که 10 درجه از جایی که ما رگی من داشتم مشکل داشت الله اونم داشت شاغر یک که اون به راست بود گفت خب چیه بوش کنید گفتم که یک هفته دست میخوام یک هفته یک هفته و چیهکد من در نمستان بو شما بدم اینا ممیخوان جنگ کنم حالا من به شما یه چیزایی که خاطرات اطلاعات زیگینتی دری زمینه دارم من سرادر من عزیز من خواهر من شما چرا دارید دور میخورید شما چرا داری این حرفها رو میزنیم ما هر لحظه، این یه مناقشه منطقه ای؟ و ما هم باید به تناسب ترک و بازی کنیم در اینجا. ما رهبرمون مسئولینمون، همه خیلی آقاستن از ما، خیلی آقاستن از ما توی این بازی دارم بازی میکنن. اینو را چی کنم؟ بیان بگن که در این موقع ما موشک های و موشک های و چه چه همه بار کامیون میکردیم از استانهای جنوبی خودمون و میفرست به گرباه برای بدین سند نمیشه اینا تو رفتگه همین یه روز اینها همین و همی ها. به خدا اینطور نیست بابا من قیدت هم نستد و اصلاف و به خدا کمتر در شما و چطور؟ کسرافی خیلی به نسبت به آزربالدان قاییون احمد کسرافی این من حاضرم نظرونو باید تکنید با شترابی. هیچ مشکه نیست من نواحق از این حتما نمیشم ولی آثارونا تدولو علیه هم شما برید کتدری ببینید که امام صادق رو میکنه امام زمان رو نفت میکنه نفتقره میکنه ایوان حافظ و صدی و همه رو آتیش میزنه کتاب سوزی را میندازه می هزار هزار از این یا اون را ببینید منی که آشد حافظ و ترزی شهری ها رو نمزم حضوری و به همین این ها هستم و و چیزی که نوشتم و نوشتم مقایفه بکنید دامنی بکنید ایدی نداره من این حد رو به شما میدم چشمالی در این چیزی از من سوال بکنه که گفتن که به سرمان گفتن که سرمان آیا بیشه تو افل گفت اگر کل سرات بگذره بیش من نه بگذره دو میتره بله در اگر من رو ما کساوی بیاد بکنم اگر من پایبند اصول و مدیدیت خودم هستم بسیار اگر کساوی هستم اون هستم به اون هستم اگر نیستم، من جهنمیم اما و اواقه و تواقه و اینجور چیزا رو بیش رو اینا منو نشاط نقاهد و وکی رو هم تجد بودنش نباق نباق سید بودنش نجات نداد و نخواهد اتا دیدونی که از خاندان سیاست که بسیار مهم تدریج سید احمد هستن من من به خدا آقشم دوستتون و والله هم اصطور به شما نارم بس گفت میو خاندار خاندار درویان میگویی خاندار حاشلیم کور هم بر رضیشون که دار با از هم سوال کسی سلام و قصد نباشی خدمت حضاقا مولایی و دانشجویان نردین نردم و در سوالی که من داشتم اینه با از که شد آیا ما ترکی یا آزری اصلا تفاوت ترک با آزری چیه؟ ما تو یک جور میخوانی از از ها رو مستفا کنیم یا هر کی رو بزنیم یا یه نماشگاه آذری رو برگزار کنیم این یک پانتورکیستی به ما میزنن آیا ما پانتورکیست نیم؟ شروع خب اجازه یک دقیقه ای ما رو تکنیک بکنم ما توی دانشگاه فضایی که براداری ممنوعی زیاده که کسی میاد چهر پرکی مخونه کسی مثلا ترکی علاقه و فلا بگم کلا، رو درد یا مثلا انگواری اینچنینین خیلی زیاد میشه اگه ممکنه برما مشفظ ما شاخصه های پان چیه؟ به چه کسی پان میگه؟ مثلا میگه شیطان پرسته خب شاخصه های شیطان پرسته برای ما مشخص رو بگم که مثلا پاندور به چیست این زبان آنها بریم که زبان مادری دارم نه من در به زبان آداری شهر می‌گن، استخواه می‌کنن، عشق می‌کنن تو که سلسون گیری سکر، سلگیری سکر ما این چی نه، بعد این محضوظه‌ها، بله، عبده اینطوری ها. مثل در مسئله دینی هم هم اینطوره. مثلا یه مسئله دینی رو، شما یه خورده مثلا یه جوری دیگه حرف بزنید، چیگر؟ آها، می‌گین شد، چه شد؟ اینجوری می‌گین؟ اصلا و این همین مشکلاتی که ما در حوزه دین داریم در حوضه فرهنگ داریم زبان داریم بعضی یا افراقی است بعضی ها خودشون رو یه جورایی بناخره انتقال میکنن انتقال نازد درست انتقال نازد نه هر چیزی من الازمن بود به زبان خودش ده. عبدا این طور نیست ولی مرد خجا این خوب سوال خوبیه، مرد اونجایی از طرف هر کسی به تمامیت عرضیه ما چه به ملی، چه به دینی دی خط شده این مرزم و ما نباید به بحانی اینکه مثلا کسی به من درباره ترک بودن یا آقری بودن حالا یه بسته مفصل هست این رو کسی به من چیزی گفت من دیگه بیام بگم از مثلا سمین آز اونوان پخش حالا به خاطر این که تو به لده تو من میخواهم مثلا ایران رو به بارد بگم برم گافی اونها این ها بشه ما باید مراقب باشیم که مورد سو استفاده قرار نگیره این حس ما. کمان که حسی دینی هم همینطوره. حسی ارفانی هم همینطوره. بسیار که روح ارفانی دارن. یکی یعنی شیاد در به نام ارفان. نه عارفی. هیچی. یکی یعنی شیاد. در خودشون دکون درست کردن. خب این ای که که حسی ارفانی دارن درست هم هست. قانون استفاده هم احساسشون مورد سو استفاده همین اینطور د تا همه زبان ها و زیبایی ها من عشق می کنم یک شعری هستی که من نی یه شعری برای تو می خوندم صدا می دونی که شعری آخه چه کارم دوستان روتلتشون تنگه از مرون می دام هم ویزای ابدی از شاعران آرف ما ایشون یه غذبی داره من با ایشون معنوس ایشون در سال 143 گمری لازم شده یه شعری دارن ایشون من ایشون رو به نام ترمتی شرک کردم شهر برای شیریش رو نوشتم. این شاید برمیز رو شای و شما میگینیم. به نقشه خامل دولار باوزه سهبازه میاد. دمدن توحیده باوزه سهرازه میاد. یاد بر منظر امیتا امده هفته ازالی سادی ساده همه افتاده میاد. تچ پیل به گران زهر گرام دوشینده بیر نفر اما اون بگرسین اونا انگاه به نیت ایلا ماشاءالله تا به با افتیدانه آلی خدا میتونه که چیه به این بیوایی بفته میگه بوش کنید خدا بگیمید چه خیالت ایز رفا کرده خدا بیشتر همه شما دوت میکنند میگه که چپیران منزلی زوحت میگم معصوم یارم اولو جان دیدی بو ثوقالو نیت چه به این زیبا خور رو دایم بکول خود شومعکلونی ما حسین رو گرفت چپیران منزلی زوحت میگم معصوم یارم امام حسین جان دیدی بو این سوال ایشون <سؤال> رندرا این در آخرشم میگه قدر سورانیه هست آخرش آخرشم میگه که وردی به ایزاد یا مدد پیر مقاومی کرمی بیردی بار نقشه یک ها و مدونه در بله اما چرا چرا؟ خب اجازه ببینید. اجازه سوال افضل خب اون که مورد دوم شد. اما مورد افضل. ببینید او تستفانی که سکی توی شده دید. من نمیترسن که ترسدن به خدا نمیترسن اما تزایی که میشه شکایی ازاد الان من افیانا خدا میترسد اما نیستی شما میگید ای وای آدم به هم دوستی خوش، اجازه بدید. اجازه بدید. فقط و کنایی داره. اساس هر هست. مدارک خاصی نوشتهن کتابه. شما اگه کتابای ندین کرمین دانشنامه‌ی جهان اسلام خیلی چیزا دقیقا رو بخونید. ما یه طور چیزایی که اختفا میشه در اون پرکان اصلی که در واقع همان‌ها هستن که در آسیای مرکزی اون قسمتها هستن و یه نژاد ویژه دارند و یه سوالی ویژه‌ای ما نفیافتند. نه هیچمون اون‌ها نه. ولی ایسی، به این باید اگر منبول تو از که ما داریم به احتلاح و اجازه دیگه دیگه. نگفتم اثبانی میشی. من که اثبانی میشم. تو تنبوز دستی کاشید. اگر من توک نشم چی میشه مثلا؟ چه اتفاقی اگه توک نشم میشه؟ اگه, دا باشن دا باشن دا باشن دا باشن. اگه آقای اون مردی که اون مرد میشه. اون میشه. من میگوسم اگه دیر پا گذاشته بشه، اگه دیر پا گذاشته بشه ما متکر تبعیم همین هر تکه چرا ترکی چی بشه حوییت ما. یه چیز زبانه من من اصطراب میهه ببینید برادران خاهران من این دانشان هم اج... اجاز همیز من جوابشون رو بیدم دانشان همی جهان اصطراب دانشنام جلده شما بیایید این سطحه در ای. ای ای. به سطح دستی سوش بست اینها رو بکنید بست پران میدونید کلمه فرانسطری به ممای تمامیت رکتاب اصلا این حوییت رو ضرورت کردن این که یک جرد حوییت برای ما چه با عنوان ترک ته، چه با عنوان سارس ته، چه عنوان روس چه عنوان به هر نجاد و بست اختلاف معتقدات دینی، ملی و حتی مناقع و دنیا و آخرت ما حقیت ما، زم... اصلا حقیت چی میگن برادر من؟ چی تurchiyya داده است دلیلش چیلی نرفیدن دسترسی نداشتیش تورچیه بودن باز اسرائیل اونجا به کاری هنی دختر داشتیم این کیلیش به چی داشتنی این حویجه در همین نجاب در همین گفتار اینکه از یادتسته چرا اینطوری برایش کرده چرا اونوقت این نواشتی که همه چی کامل شد؟ نه زی ما یه چیز دیگر جوهری روح تو برادر از باید در اون هر اکتر سن. بود و نبوده اینها اتباه شدن و شدن اینها یعنی دیگر. حالا در این خصوص به خواهر عزیز رو میکنم. من اینه که بیا در این خصوص عزله نکنیم. اما عزله نکنیم نه که یک طرف از کاملا در دست قبول کنیم و تموم بشه. یا این یعنی تحصیل بکنیم. مطالعه بکنیم. الحمدلله من روی شفیدم. چرا؟ چون شما را به آگاهی و مطالعه کتاب دعوت میکنن. شما عقلتون قاضی بر این که به آگاهی دعوت شدن به خوندم کتاب دعوت کردن درسته. من اگه شما رو به به بنخاندم. مثلا میگفتن که این کتاب ما در آقای سعید نسید. که نخونی دار. اینو این را اون من محکوم بودم. من میگم برید بخونید عزیز من برید بخونید اصله نکنید، جوانید، عمر دارید، اشارها میرسید به حقیقت و من هم از خدا میکنم برای خودم برای شما, شما اون حقیقتی که درست ده خود، من دیگه ای جازه، نه ایجازه همین بگن اون چیزی که من در یافتم خود بله، با تمامیش کرداتم با ما ایرانی هستیم برای در واجم و گفتاد نژادهای مختلفی از ایرانیان زندگی کردن که برای ما یک گویشی که شروعش از گرنهای هفتون به بعد اوز و گستردگیش در زمان سفری به خاطر جریان قزنباش و محاولت بعضی از اقوام عراقمنده به خاندان سفری از اماپولی به ایران این یک گویشه نه یک نژادی که گونی باشد درای آن همی چیزی موضوع حتی دیل موضوع خدا بکنیم این نیست. ما آذری بکنیم خب ببینیم خب ببینیم همون حوویتی که دارم مسلمانم خب زبان مادریم یه حوویت دارم. من همون جا که دفاع میکنم من زبان مادری همون جا من حوویت مسلمان بودنم دفاع بکنم Dolay bizden bele zamanlı دفاع mi defa mi از Eğer derhal زبان sefer دفاع oda in defa defa nakor. Dolay da gözalım اول defa. Çekil çük. Yani her her seferin ki zamanı oda in bir gol عزیز من او کنی من مثل شما یک انسانم ایران آغری بدی تو در اینجا زندگ میکن دنبال این جوابها سم در جریان دست پانوریس که از کجا شروع میشه شروعش از همین جا که شما میی یعنی دفاعت هبیت زبان گفتار منظور نفش زبان نیست این نیستی من بگم که در از فرما زبان آذری رو به کنال ببرایم اینا خلاف همه نه این نیست اولیم. ما باید در همون محدودهی که به شما گفتم میگم که دست زبان آذری و پرکی به گول شما که سرد کنم. من پندرم آخون در بول آقا شاید آقای بحثتا مثلا نهد با این همه بنده از روسیگی آزری مقامی اصیل سنید بفار کردن. در این جلسه در تهران من پیشنهاد کردم در قرآن جلسه آقای وجود به ما رو دعوت کنید یه مقام درست حسابی بکنید. این همه تحصیل کردم. بودم آسان شما گفتم ای بابا من اینقدر مماینه ای زنید خدیح و آیت الله رو از راه دیدن چندرم. شما چه نمیدونید؟ عزیز من در اون محدوده باید دفاع کرد اما اون محدوده داره. شروع قستر اینجا شروع میشه. وقتی این دست ایجاری کردن و تو جاردن این که هم فرش مزل میکنن. جالب بدونید که در حه و کاانپورکیز شروع این جدیت ببینید من خواش میکنن این رو بتونید تک بکنید یه فر هست دیگهشون میگه که یوسف آکترا که به شژی به استانببول محاضرت کرد بود در سال ۱26 به اتفاق محمدانی. شاعر شاهد معروف عثمانی نقاین اننی، ترک گرام، ترک گرنجی، انزامن ترک را در سال 1312 تحصیب کرد. هدف این انزامن، تلاش و رای و آموزن و آموزنگل اتعار آثار اثار، احوال و محیط گذشته به تمام ازوان ترک اعلان شد و به سرعت سهرشت سیاسی ادامه میده. ببینید؟ درسته. اما ما هیچ محدوده داریم. یه وقت ببینیم همین حس شما، تبدیل شد برای ابزاری اینکه یه آزبایجان واحد برای شما درست کردم. یه دهنان علاقی درست کردن یه دهن ده حقیقی کردن در گفتنش اینجوری من با بعد یه دوستانم که صحبت کردم یه خوده در گره که پیشنفته بودن گفتم الان خبر به ما درستی که از پیستان و هر منهای ما هم می شما چیکار می کنید؟ میرید برای دفاع یا نم. با اون؟ فکر ماندیشون تصورش در این بود که به شدیت که پانتورکیسوسه گفت برای اسلام میرونم نه برای وطنم گفتن این تعداده او که نشد که نشد برای اسلام میرونم برای وطن. شما باید برای وطن اسلامی دون برید. شما میگید ما به اسلام پایدندیم من میخوام بگم که آره اسلام در مقابل دست و زبانی در صحبیت قومی تا این اندازه مباسد است یعنی اگه مباسد است با شما هم عدید اگه نیز نادرسته باید اطلاع بشه این مرد داره، دریا من نمیخوام به خودم به شما میدونید خودم از چه هم بخونه اطلاع دارم در این چه زبانمون رو یاد بگیرن چه اشگاه فیدرما ما رو بخونن، اشعار دیگر رو بخونن این معلی همه این ها شایی داره و محدوده داره حتی بگیش که این سواله بدیریم همه این من در خدمت شما باشیم شما باشیم شما باشیم یک که اینجا آمده باید مثلا شما آمدید من ماظر باشیم چرا ترکی هست نمیزدیم شما باشیم این دکتری شرط بنایی که این سیلیجار تحت کوادران کاش ادیم؟ یه جا که آرامی شینه. بالا به من تو اذربیجا بود دریان هنوز با کت بسیاری اذربایجانه. یادم آمدی. نیامده نرساتونی. وقتی da زمانیم دی. آن نشستهاره تو دمنانیم دی. من نیامده نرساتونم. ناموستی هستم. به اون دلیل من بیان ایران و ایفاداد و همه چی را ببرم به باقا معترضم شما من باقای زد خیلی از مسئولین را به بارا. نکات ریزی را که بنده در اون مواردی که برشید به زهرم رسیده به اونها گفتم و میگویم و خواهم گفت اونها و در همه ما بایدان بگیم اونها دا شانی اعتراضم داره این داره؟ بابا تا درمون بشین بگیفتون موضوع موضوعات توی چه چیز دیگر شما می‌خواد من انتقاد بکنم به خدا قسم اگه باب انتقاد باز بشه برای این نهادهای فرنگی ما اصلا ما هر چیه از دست نهادهای فرنگی و از اینکه این نهادهای فرنگی باشه این هر اون اینجوری دادن هیچ اعصاب نمی‌کردن تازه خیلی هم کار شده ولی اون ظرفاتی که ما داریم چرا انتقاد وارد میشه میشه با هم دیگه در این انتقاد بکنیم قضای ما فعلا یه قضا و بحثه بگوید بسر الله الرحمن الرحیم با عرض و خدمت استاد محسرم و دانشجویان عزید سوالی که داشتم در مورد همین پان ترکیز چرا پان ترکیز ما تمایز و تدیگه طلبی و پیوستن به آزرباجان ها یا ترکی دارند در حالی که ایران از نظر کمتدون و سمد نستاد یونا است؟ به نظر <تصفيق> ترسوب دی جانی و سوالی توبا همه چرا هر سال ادامه میگه چرا هر سال چرا هر سال برای تذگیر طلبان چه روزو میگارد که اصلا هر سال برای تذگیر طلبان کنگریم ترسیدوند شما من یک چیزی به شما میگم شما این رو یادداشت بکنید در که یکی از بازرگان هست که این چیزی رو میگه به ما میگه یکی این رو در کجا بوده؟ دوست کودتون دنیستی بعد این که درست میگه این خاورمونی نسلی که تربودن در ترتیب کلیک ببینید شروع اشتغال من و توی ساده ده ازیزان شروع میشه یه وقت میفهمم خودمون که اینجا دارن ترالی ما نشینی کردند ترالی ما دارن نقشه میکشن من این کتاب ها و نقشه که در همین جمهوری آزربایجان به اطلاف همین گفتار داره اون تو حکومت توکر و تفاوت هایی این ها رو بمانه بیسه افت و داشته میشه شما بدونید جا یکی زمیان تجزیه اما با تفاوت ای دیگه دو دست دسته که اکثریت ها. واقعا تو دست دسته تجزیه نیست. همین مسائل درده که دوستان دارم اما خودشون نمیدونن خودشون نمیدونن که اینها متاسفانه ویچنست و مفتصفانه فشار احرام اینها کور خوردن متوجه نیستن پشتی این جریان چیه من بازم به خاطر وقت میگم من در باکو که بودم در خاطرات نوشتم اونجا به وقتی شکلات راه میشه خاطرات مفصلی که به شما بگم از اون جوانانی که در سه شماها بودن در جریان دموکراسی و بعد و قبلش به اینها رفتن به همین ایده ها و اینها رفتن و بعدتر از کجاها رفتن خب اینها رو باید دوستان ما بخونن که از کجا شروع شده همین به دکتر دکتر مستطولله جهانشاه لوی چیز افشاد که هست این بخونید خاصه ناسشون ما و بیگانگان این کتاب رو خودشونی از کجا شروع شد که دکتر عرانی ما رو از کجا کم کم کم کم شروع شد تا به اینزار تیزیم و بعد این اینطور شد یکی اینه یکی که اطلاعات کارن اونها خودشون میدونم جریان فرقیه طلبه میدونم دنبال آذربایجان واقع واحده میدونم دنبال به اصلا تورانی و حکومت تورانی و ترچی در یک بخشی از دنیا هستم که بلا خودشون تحریف کردن. این دو جریان. و ما باید مواقع باشیم که دردام این جریانات نیستیم. حالا همین مقدار کافی بیشنه میشن. با آره من بیبینید. مشکل اینه که شما میگید که هرچی دی مطمئن نه دوش من یه چیزی هم ببستم. شما میدونید که درصد بسیاری از این جوکای که برای تو گفته میشه خود ما درست میکنیم. نیست خاهر من مستره نیستی خاهر من مستره نیستی خاهر من گفتم به شما بسیاری از این جوکای که درست میشه توسط خودمونه من یک بار در جلسه یه آقایی خیلی خود به نام هم اسم درست مو اعتراف راسته گفتم کوتدم این لع به هر جنبه گفتم کوتدم هسته به با همین این همه کار گفتن شما با دونه شیر باقلندیم شرایط این کار رو می‌کنیم. نه نه نه نه نه نه توی تو خید توانی ندیم؟ باشتا نه اگر توانی نید تو اینجوری پیچ میکنید؟ اینجوری نید من وقتی ما در دستهای اعتقادی خود در توحید خدا گاهی میگیم این هست درسته این هست نادرسته ما داریم یه اثنات درست میکنیم این تو اگر واقعا به این درسم من اشتران میکنم از شما من بلوانی کروهانی به در اینجا درسم که این آب حرامه شما به بپرسی این حلال یا هرام من به شما بگم که میدونم حرامها بگم هلاله من به شما خیانت نکردم من اگر در اصلاح تاریخی حسب تحصیح خودم به این برسن که اصلا این یک گویشه ما نجاب در ایران نداریم این رو به شما بگم من تومین و خیانت کردم به شما نا خیلی این خیانت شمید. نه بره. من برم به شما میگم. به شما میگن که با این تفکر شما ما نمست کش باز میکنیم میدینیم که ارحام عریف شده در جهورم مماظر خودتون باش. حالا یک که بود شما گفتید من گفتن یادداشت دست کنید در گوشه ایت دمانه که عمر سولانی میکنید و این شما که لبه ها و ها و اینها شما خواهید داشت و این زریانات رو خواهید دید. که در بزرگ من یکصد و دو ساله شد در سال ۱۹۶۶ از باکو آمده به اردویم تمام این رو دیده و برای من صحبت کرده بماند از ها و اسناد همه این کسا میبینید که اینجا خب منم همینجور میگن دیگه نه من میگم که واقع من خایرم اینجوری میگم. اجازه بدید سواس خو؟ خودرو؟ یه جا دیدی خوش کنید به منم باید شفت بزن خوش من به باهر من, من دارم نفت باگه مثقه رو میتنجم میگم اگر در واقع هم اران شبه یا روزه کنید من اگر چلاف این واقعیت هست که زنم این واقع. او اما اگر موافق این واقعیت هستی بزنم درسته یا نه درسته البته که درسته شما بگید شب یا روزه منم مطابق با واقع بگم شب چی میشه؟ هیچی اگر شما مسلمانی من به شما بگم شما مسلمانی کاری میشه؟ نه ولی اگر شما مسلمان باشید من به شما بگم شما مسلمان نیستی اون وقتی آنفه هر من اینه با اسناد، مدارد، شواهد، همه چی برای من طلبه ثابت شده، فرق کنیم حالا برای شما ثابت نشه، برای من ثابت کشه که ما ایرانی آذری شیعی هستیم ما ترکی که به اون منا میگن نیستیم این واقعیت رو در زبانم جاری بکنم آیا این میشه توهین؟ این طور میشه؟ ما شاء الله سلام دول في سؤال هل عندنا 30 عندنا 30 عاشو كده عاشو هي آهی شوکتی رو تشکرشون بفرماییم <تصفيق> از کنم تو که آهی آخر آهی شوکتی هستم باید تو به زمان از آن <تصفيق> <تصفيق> که بفرماییم من هم و اگر وجود به نام خودم. به نام عرضی بازم. ماتونه بازم. همون شما به درست کردم قبول نکردم. چی همون افترشم شما به درست ممناظری کردم. گفتن گسترسیت نری قبول نکردم. قبول نکردم؟ نفتر. من شاهدیم. من قبول کردم. به دون رسیل تفکیح میشود. ای دیداره. من به مناظری شما بدون شد. در هر کجا کج من نبستم نه، گفتم در همه جا حاضرم خب، شما میدونید چه جامعه ندیزه درست نیست، درسته؟ چی؟ درست؟ نمیشه تو تندگیزه با جنگ کرد، نمیتونید هم جامعه دو تندگیزه ببیشن، درسته؟ شما میگی که آزری یک اسم جلیه و به دفعات قردم بباشته شده و کاملاً جلیه و شما توی این جمع، همه این جوانه را حدود 5 بار خطاب کردی؟ آذربایجانی گفتی برای دارم آقا هران آزربایدانی من شما چطوری منو آذربایجان آذری رو دروب میتنید دارید و دوباره من رو بگیش شما کسدوی رو مثال میتنید کسدوی آدم معلوموی حالیه. کسدوی هم این شما به لباس روحانیت و آخنبی مضیم دارید از تحنیم آخوزه ی درسته؟ آه. ولی وقتی که پول حکومت و مجاز شیرین اومد لباس شکر هر کسی که حسومت پنگوی رضا ملعون میخواست به اسم تو به اسم دین همه چیز رو دیده بود درسته؟ دین دین رو دیده شایل بود طرف بود درسته؟ بزید. از شما این شما دلیده این جن... شما دلیده این جمع که وقتی که کسی تو دیشت وقتا گفت من شما مثال توز و انوری رو گفتید درسته؟ درسته خفتید گفت که این شعر مالی چیه گفتید من انوری این انوری شاید رو زنگیدیم درسته؟, درسته؟ یعنی اینکه من اسمم آزریه یعنی من توزم درسته؟ خفت عجله نکنید که تلفنی آقا خیلی خوبی دارن میگن اما چیزایی که من میگن سخت میگن شما در بابک هست میزنید. ببینید جامعه مطلب های دنیا ایندت و درهم هم که نیاز درم سال بابک نداشته داشت از اول باید باید باید باید دوباره این از سرویس تاریف سایتی قابل تشخیص می. دلیل شورای منابعتون دوباره از مطلب. منابعتون ببینید در مورد تاریخ و تطابق شناسی یک اصلی هست. در واقع علاوه اینکه در مورد تاریخ و تطابق شناسی شما باید تاریخ اون منبعتون، سندتون با اون واقع همزمان باشه. شمام اجزائی رو برانداز میتونید که تو همین حکومت در همین دوره، همین زمان نوشته شده. این مسئلت بدونی این تردیس این کتاب رو نوشته و این تهمت ها رو به جامعه توتیسنه یا باید تخواب این مسئله توتیبه باشه یا باید اطلاع کنه من پیامبرم یا داره درون میگه یا باید تنه همزمان نداره کنه بدونی اگه شما حاضر باشید من حاضرم پشتا کنیا رو سند بیارم اونم اسناد واقعی همزمان فقط یک سوال که دیر من بدید من سوالم کامل بشه تر نه پشت سره هم میگید من هر فرکتا کنیم راستاش کردم ببینید از همون اولش رای کنید تا از ایتراسیوی های هم گرفته که باعث شدم که این خان همین همه تراتوری های بیوار این وارثین و کشورهای فصلی ها، اینها هاستند با کشورهای دیگر بودن. هاستند با نسل شرقی آسیا، شرقی روسیه بودن. از اونها دکتری، این تراتورهای کوچکتری که صاحب مواردی از رختهای دنیا بودن. این تراتورهای امپراتوری این تراتوری و این های مختلف. حالا نمیفهمم این تراتوری که اونجا، که مختلف دنیا رو که شما مثلا همین اروپا رو ببینید، ما ایمپراتوری همه اطل... های اروپا رو داشتیم به فرمانوائی آسیای کبیر. آلپ یک اسم ترکیه می‌دونید؟ به همه اسم پادشاه‌های ترک اولیش آلپ می‌گفتن، مثلا آل هم ارسلا. همین اسم کوه آلت آس اروپا همه از همینجا یا یادگار فرمانوائی ما برنجا. شما، ولی من به به سوال می‌دارید. ببینید که من تشکیلات و جاویی دارید نیست برید کنبال مدالات و مدالاتی که معروض به حولیدین هست ببینید که اینجا وقت تنین می کنه اجازه که اینجا وقت تنین می کنه. شما نیستید این جان رو من وقتی پس ببینید بشیم سرکاتون با پیشتون بزره که میگم در فکر اینکر منخلت آخرین مرحله سوالات من رفت که اونوید کسان تو باید سوال پر دیدن کمپر سوال, سوال من یک چیزی دیگه هم برموز بابش اتماع بابش شمانیت چیزی. نه خورنیم. که با نخاطر همین شمانیت بودنش هم، با خوردم دینام مشکل داشت. و تنها مشکلی که شما و با شما بابش, بابش دارید، اینه که فکر می بابش در رضع اسلام زنجیده. بابش در رضع اتباسی هم زنجیده. همین مستقر می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 ایشون یک ای زمین مشروعی دارن مورد پورک ایشون میگن تمام صفحات کاریس و کاریدن دویی پذرگزار پورک ها را برای ترمان رو اومدن که تصویب کردن که هرچی برای گفتم دارن <تصفيق> ولی... ولی... من مایل نیستم که مطابق توی یک خضای حیجانی گفته بیشتید شما خیلی حضایی گفتید که الان من به ارز می کنم که مقابلت هست یا نیست کسبری بدانید که کسبری چه بوده این که میگید آفون بوده ازولی شروش اما تو همون عوائل آخندیش دوشار انحرافات میشه وقتی کسدوید درد وقت میشه که آخندیشو میذاره زیر پاش کسدوید دین رو گذاشت بیره پا نه با دین نام خود کسدوید امان و امان زنان و قرآن چی همچی توحیم کرد کسدوید رفت حکومت جائر و ظالم و از خونست سفنگر و خدمت کرد نگی حکومت عادل صالح رو این یه هست من حکومت جمهوری اسلامی را ظالم نمی دانم عادل می دانم آن را اختفار برای جهان اسلام و ایران در تمام تاریخ خودش می دونن. و بر این اساس و اعتقاد هم این نظام رو صالح می در بر این نظام عشق می ورسم هم برای جمهوری اسلامی به ما جان نابابل گروان میکنه من طلبه که ای هستم که بدانید هیچ سنف دولتی ندارد من گفتم بکنید به حالا به زبان هیچ نگران نباشید از تو تومت و از هیچ هم تیری نمی و نمی کنید کنید حالا شما حرفاتو رو زدید دیگر من همه پوهین ها و حرفاتو شما رو گوش کردم چرا گوش نمی کنید کم جنبه اید آدم باید تحمل داشته باشید من اگر من عجب آخندی و دین خودم و دین پاگ رو و آمدم حرفایی مثل حرفای شما دادم اون بخشم مثل چفتویر اینجوری نیست برادر من چفتویر وقتی بردست شد که به دینش و نهایتاً با پتوای مراقع زمان کشته شد پولی که با اون چفتویر رو کشتن و سرور کردن به حد با تروسط آیتونا روز ما نیلانی تهیه شد بدایم کسی که اون رو زد و خوشت روغانیه صداکاری به نام نظر و تصویر و یاران پسنا پس این حیاثتون اینجا خیلی دید اون یکی مثلا به گفتی که اول شما معلوم کردن به حرف من درست گوش نکردید یا خدای کرده. ایشانالا اینطوری نید گوش کردید و فهمیدید ولی خودتون وارونه دارید جده میکنید من گفتم که منطقه آران و آزربایجان نام نهادهاند اون درست نیست نگفتم که آزربایجانی که الآن حدودش مشخصه این آزربایجان نیست تا شما بگید که به اینا پنج بار فت ری انا رو گفتید دروکوچی ابدا آزربایجان حدودش مشخصه رود عرسمرز ما از سمت جنوب و غرب و شرق و, و مشخص همه اینها و ما با افتخار تمام آزربایجانی هستیم من شما بس خلفل مردمان آن سوی روز عرفه اونها که امروز خودشون به آزروازن از سال 1918 خاندند و بر این اساسا توفعه درست کردند تا امروز ما گرفتار این بشیم که حد از از طرفات که از ما گیان بودند این که اینطور بازی خود رو گرفتار بشن و خدا میدونه برای آیندن چه نقشی دارند اینا کتاباشی گفتم من به شما بنده تمامی یعنی مهمی کتابهای کتابهای که یعنی همیتر کتاب های مهمه اینا کتاب که تو دانشگاهشون، مجلسهشون تزیز همه رو آوردن، دارن، اوندن، میبینن. عزیزمان، این خوره. شما به من گفتید که نمیدونم به توزار گفتید. دو، خودتون میگنید که افتحام تهمت دادن خودش یک گناه خیلی بزرگیه. یعنی من اگر به این مردم، به این خوهران و براظران گفتم دو، شما اون رو گفتی گف اگر من نگفتم به اینها دزد شما دارید به من میگید که به اینها گفتید دزد شما دارید گناه کبیره انجام میدید شما دارید به من تهمت میزنید من قسهی در مثال مناقشه یست و این رو برای مردمان نه مردمان من جانم پدای مسلمانان و شیعیان اونوره، مرد من. من با اونا زندگی میکنم با شیخ عبدالغنی بادکوبهای با الامه با شش حسیل رامان علی و بسیاری از اونها بزرگوارانی که در اونجا شهید شدن. من مخالف اونای هستم که سردندارانی که عامل بدبختی وقتی بودند بودن. از من مسئول زاده گرفته تا نریمان مریمان رو گرفته تا نوزا ستر گرفته و تا محمد امید و گرفته اینها رو با باشم مخالفم. تراهان تر این عدی عدیده رو مخالفم که اونها رو هم بدبخت کردن و به ما هم در طور تاریخ آسید زده اند و دارن آسید نیزنند و تو برادر من متوجه نیستی من دارن ادعای اونها رو میگم دروغه انوری شاعر بود به اوناها گفت شیرمالی چیه گفت مال انوری گفت مال اندری چیه گفت من اون داشت دروغ ادعا میکن حالا اینا شب و روز میگن آزربایجان آزربایجان بعد اونها کیا دولت اونها بعد میگه که آذربایجان کجاست میگن ما شما آزرباجان نیستی، اون بره من، آرانی، شیروانی، این رو برم میکرد، چرا مقابضه می ما آزرباجانی هستیم، با همون سیم، شما خبتید بابش ریاده سیم، خب چرا باب... از این همه، نمی، اصلا من نمی پذیرم بابش ریاده؟ ببینید ممکنه سر چاله دیگه دیار این من میشه پروفیسور حسابی و دکتر تیز رفر شهیدی و علام محمد و سبا و همه اینها بیزاره کنار بگر ابدال مارک ریژی ممکن اینطور بشه اجازه بدید خانون من هستم رو بزنم شما من اعتبادم بر اینه در اساس اصناب دارن من رفت میزنم شما دارید در خیال خودتون یه بابشی درست میکنید می می که ازشتفا میکنید من میگم این اصنابی که الآن هست؟ نه، درمان توضیح میدم این اصلاف که یه مقالحه دو قدیه شما اینها به ما میگه که بابش جنایتکاره اهل کشتاره بابش مسلمان نبود بابش برقلی اسلام بود نه عرب این اسناد دارن اینجوری میگن شما در مقابلش میگید که نه، ما بابش بیاد نه خدا نکنه ما از بابش یاد باشته باشیم ما باکری ها رو داریم یا ها رو داریم قهرمانانی در این اصل داریم اینها سفتاقمان و باگفان رو داریم که برای تمامیت عرضی ایران اسلامی جامعه خودشون رو فدا کردن و بسیاری از این اینجوری نگیر در خصوص اسناد بابک به شما بگم اتفاقا حرف من اینه میگم آقای سعید نفیسی و بسیاری دیگر و دوستان شما. چرا اینها میگن که دروغه دروغه دروغه, دروغه در حالتی که واقعه ابن عمر طینی نزدیکترین فرد به زمان بابته من برای شما از امام جواد علیه در کوسه قرنیان روایت خوندن این روایت در سال 220 در زمان اقتدار امام جواد علیه السلام صادر شده از امام یا باید سند بیارید بر اساس موازین علمی متود علمی بگید که این پرمایش امام جواد از امام جواد نیست یا خدا نکردیم دیدی که مطمئنا نیستید البته میدونم نیستی ج به اس من شون قبول ندارم به عنوان امام گفتی که ه هست هسی دیه اینم میشه این فکر کرد چرا نمیشه خب اتار بکنید یا بگید سندی که مثلا ابن ارائه خبری ارائه میده اینا که همه نزدیک هم به ترکی یعنی استفاقا هر نه، زمان هرچی نزدیکه باقی شد همه دارن اینا رو میگن بعد ما با باقی میدمون نیست می میگین همه توفته دروغه دروغه دروغه بابا دروغی دیدن این هر رو باید با کرد دروغه نمی که من تو خوشم دروغه تو چون خوشم دروغه اجازه این شما اجازه من انجامش نگاه اجازه بدید هرکارمون من بازگردم گوش کردم. اجازه بدید شما هم گوش کنی، کوش کنی ازیز امن ثج بیقی丈 Kelleryدن ازیز امن ثج بیقی گ challenge درد capacity می گذردن به goal ازیز امن دقیق از آن اشاره می که موقع از آن شده اونجا آن های به من اشاره می کنند که دامنوان نیم ساعت قبضه شده فقط این دراده را مسلم به شما دراده در اگه اتفایی داشتنه ما فقط مشتاق نگهن حقیقت هستیم اگه این سراده مرده بود قصد انگیز را خواهیم کردیرون بزرمیم بزرمیم بزرمیم سرشون را بزنیم با با شما یعنی از دیر کشتان اونه که ازره میتونیم احسافی هستیم این گیری نباشید. یه بحث اینیه به خدا قسم اگر یک صند درستی در آنی شکرم میگن که ضده خب صند که بابش مسلمان بود نه بر ضده اسلام بشه بر یک دیر چیز بود کل افایی بریان ما می کنیده چیزیم من اصلا راحت که در میشن مگه من که افرادم، بفرادم، شما این مطالبی رو که از کتاب هایی نفیسی عموان کردی نه، نهبری شود رو همون، همون خوزینشی بود، همون هایی نفیسی تو همون کتاب از از ترکی، به ترکی ترجمه شده، من دوباره به فارسی ترجمه کنند در قرمه، بل، همون کلی بابر که مسجد و معبد بود که اهل مسجد به مسجد می‌ردن، اهل معبد به معبد می‌ردن. تنها در مقابل اعراب هر دو در به واهدی واحدی جنگ میکردند. بعد ابو منزور بغدادی قابل بازگاژی، بیگه در شهر کرهستانی، برای مسلمانان مسجد دوست شده بود که مسلمانان از آنجا از آن پرکش میکردند و قرآن می‌کنند. حالا, حالا این ها ممکنه با یه سری اصلاحی دیگه هم رد بشه اما هر بای شما همینطوره یعنی, خوبی یعنی خوبی الان من دیشب به همین مسئله بودم یعنی همون مطالبی که شما عنوان میکنید و مدارکی ارائه میدید ترسل یه سری مطالبی هم نقد بشید یعنی الان یه حال تشکیش هست که شما هم نمیتونید به این قطعیت رو کنید که حتما این هایی بوده یه احتمال باید هم در کار باشید بعدش هم حالا ما باعث یه نماد شده با اینو کن کار نداریم با خونویزی حالا شما میگید با هم کار نداریم و یه نماد مثل کارکار ملی ایتمندرسه باید احترام دذاشت بریش نباید حالا از کتاب شرگ و تحلیم یه مستقی بود موجود بکنم زنازاده دیدن و بابت روش ایما اونوان وارد نه نه که دیگه ای میگشه حالا نه شما تو ما خودتی اونوان نمی کنم نه اجازه اونو عرض می کنم نه مستقی خیلی خوبش نشد که بابا نهت مستقی کنم تو ما عرضتون بعدشم گفتی که بابک اول اصفحان و شیراز خوب. یه نوزن اگه جا دیانشو شروط هست بعد رسید من اونجا شما درام دو تا که اعلام که اصطور قادر به بردادی شایید نتیشی همین که شما خودشون اصطناب کردیم همین خاجم نظام نامش در بابک همه می که هم در به حلط بابط مبینه این حالتیش بعد همون کاجه نظام و مورد تو سیاست نامه میشه در زمان مهدی خلیفه باطنی های گردان، که ها پرچم غلیت ها هم گفته بودن با خوزن دینی ها متحق شدن این شما از این جاوون جا شروع نه. نه اون جاستانی بودن که به خیلستن بعضیش هم آرا اینا به کنار اصلا بابت هست. هرچی شما میگید. آن که ما میخواید میشه، به زوان ماگریمون برگیسیم. بخونید، رادیو تلویزیم داشتیم باشید که پرهنگ عصیم این های کنید. روزانه داشتیم باشید، باید هرچی که شما میگید. بایده ما کاری باید نداردیم. بعد از این انتظاراتی شما که ما هم همین هم اینو این که که الان دفتیبای حکومت رو حکومت عادل میدونید در حالی که هم ما نهاید به شکی میرسه اگر انتظاری باشه مستقیم به اون میرسه یعنی لانی... من فقط از کنم شما ببینید یه مشروعی را ده خلافی یک شفت این برادر به من گفتن که شما فقط حوضرین، نه مطمئنی بشید، اینجوری نیست ما متاسفانی می کنید، به حفظ نگاه کنید شما چی کار من اما هستم نیستم، حوضر بودم نبودم الحمدلله هم دردام، روی برسایتون، ما حوضری به دیگرد اینکه آستانه تحملمون خیلی باراست گفتم ما هر دو تو برسای خارج، امیلترین نظریات بزرگان که تو به گفته ما گفته میشه، نزل میشه، ه من افتر اینطور می سالهای سال رو موضوع کار کرده متاسفانه من یک چیزی که اینجا نارا هستن اینه چه؟ دوستان ما میدونن که خیلی احساسی و اینجوری توی فضا متد متوب داره لبشایی سفیدی این چیزی این سنت هست در مقابلش اون سنت هست خودشون اشاره کردید که همین سنتی که شما ارائه میدید ممکنه هر سنتی خلاصات اصناهی دیگه نردی بشه ما باید هست اسناد رو کنار هم بچینیم اینو در اصطلاح ما بگم یرخ و تعدیل ترجیح یک اسنادی بر اصنادی دیگه من به شما دارم اقیق می کنم. اگر ما اصنادی که در خصوص بابک و در خصوص جنایاتش دین شمین مساعدی که من مسئله کردن به شما ارائه داده بشین با اسناد این کنینی که ایشون بیان مودن اگر این مقایفه بشه شما خواهید این که چقدر این ها ضدیر و چقدر محبود به دوره خاصی و توسط افراده جالب توسطون اینه چه؟ از آن من میگه کتابی دارم سه ایتر تاریس آزرگاهتان جناب در همه محترمند ایشون هم یه به کردیم همین ما به همین در اون باید ایمیش اصطرام میداریم در آقای تاییز که در که بلافره نمیشه دانشمندی نظری دارد بلی شما همین کسمت بابک خودم اینا رو خودتون کم بخونید. رو ببینید که چقدر افتانهی خودساخته نشستن و اینها رو باختن، این که که بابک هست چیه؟ کن. ما میخوانیم دنبال این مطاربات به رفت نیم باشید. برادران اینطور نیست. شما الان با همین بابک چه در چند سال گفت. چی میشه در یکی اصلا چقدر مشکل سیاسی کرده این جسده برای در من درودگرد در برای در همین نظام که شما و من هر دو آدل میدونیم این رو شما میگید که اشتباه سیاسی ما برمیگرده به, به حکومت و دین هیچ وقتی نداره من که طلبم اینجا ممکن اشتباه کنم ممکن اشتباه نکنم این به معنای در اصلی نیست شما چرا اینجوری فکر میکنید در جمعان امیر المومنی از اممال حکومت امیر المومنی بود. کدر همون زیاد اوویدون داید زیاد حالا چطور شده بود که کتاب به شما معرفه می اگر خاصی مطالعه بکنون کتابی به نام نیمایق کارگزاران زاران انجمن علی المومنین عای زاخری نوشته این فیک گزاده رو بدونید در زمان علی هم داروهاس افرادی بودن در جاهایی که اشتباهات و غلط قاضی های دسته اینیدهای علی نوشته میشه مقام مجلس رهبری اخیراً هم می‌ذارن مثلا من خودم از ما سبب در ناراضی اممتقد میشه در باز در در خطاب بسحال میگه که من که موافق الان در همین آزادلیشی شما شد من حسن از این با اگر آزاقی هم بود به معنی واقع کلمه و جلسه احساسی نبود چقدر توافق می رسیدیم با همزگیم؟ پس اونطور نیست که اگر سناس دیمار سازمان و تبریقات نمیدونم وزارت اشار این اون اون یکی اشتباهی کرد به حساب این اصلا معروی نیست این حساس از از فرماشات شما خب یک یفت، تری مطالب دیگری هم هست که همه قابل بردستیه ما هم با همون مطالب حق از طرف هر کسی اگر یک رشتی یا که آقا من راضی نیستم چرا در موقع نجوم هستم میدنیم چیستو یا ذریع تو من هر دریع. یا بگیم در مورد منین هتوقت در یک دوستان من اشل استرام وزنگلی از اجرای دادی پیشاپی شابی ماه مبارک رمضان را گفت که چیزی دستم بعضی که کسیه حالا از اینا شوخی میکنم بشاران حالا ممکنه من از به شوخی دیرم میگم یه که ادریل استان شده بعد گفت ای کودا چی شد در ما به حالا ممکنه من به همه شوخی دگیره ماشینیم که ما ایرانی خوش زوبی. ما ایرانی خوش تریم اهل یه وقتی می می‌تونم که من بکنم بگم ما این هرگونه نه این در همه هست نه در ما یه چیزی از در لابدایی شما بود قابل درستی و نبتر. فقط من اجازه بدید بگم همه شما، همه دوستان عزیز من، همه جوانانی که انتقاد میکنند به سختنه بچین به خدای آلم قسم دوستشون دارند به خدای آلم قسم هیچ قصدی زد خدمت به شما و اون چیزی که از دستم برمیاد بگم که من صد دست در در درسته هم بگم ها چه؟ ارائه میگم، بوتره داشته باشید، موازد خودتون باشید ببینی همین شهید متحری که شما اینجوری میدید من اون رو اینطور نگفتم برادر من این باستلاه نه که بابک رو اونطور این مطلب رو در و بابک گفتن نمیخوام بگم درسته ما چیکار داریم به درست یا ناگرست بودنش ایشون این رو میگفتن که میخوات وقتی میخواست به بستلاه فرار کند به طرف ارمنستان به گفتن که تو که هر جا بروی خانه خودت میباشد خیلی ببخشید خیل چه تو چه تو زنها و دخترهای بیشماری را آبستن کرده ای و از بسیاری از آنان بس چه بچه دارید این رو هم از کامل نفسی نظر میکنه به نظر مرحوم متحری این که سه قوت داشته تقلیت شده این مسئله ایشون نظر کرده از در آثار شنگ متحریر مطالب بسیاری هست هسته ایشون تحریر میکنن میگن ایرانی هرگز خودتی یبن علی عریب و عریبن عریبن عریب را هر عل و به بابک دل نقاه از حتی در هماسه حسینی اینه بارد اصبانی میشه میگه اون وقتی که حسین ابن عدی و عدی ابن عدی طالب از دین خدا حمایت میکردن خدا جهنم جهنم در روی امثال بابک خواهر من برادر من چرا ما باید بیانی این همه روی این قصه جمود بکنیم آیا این نوع به جمود ما اشاره و یا خطری بر این نیست که ما به نوعی تأثبه این چنینی در خوردیم در اینها راه باید، اصلاف همه رو ببینید، صاحبان اصلاف رو بررسی بخونید. یه وقت ببینیدید ساله یه وقتی بسید، از صدای مطارم، برای خودم، برای شما، برای همه ایرانیان، و برای همه جهان، و برای همه جوانان و انسان ها، فدایت، نیست، وقتی، صلاح، صداقت و صفا می You're bring it up to us, <laughs> turn it up. Just bring it down. StrGI 2. All right. Hang a little bit of a honora. Hugo protections are of deutlich across town. Justyvote that's a bigktay. Ma Ivan cuzrassa Vitor and Mike are and Taylor benefit you too. حالا اجازه خیلی سهرین شما رو بخش ها صدا کنند بخش گوش کنید من رو حاجفانون طلاق می من باید برگردن سرم یه شکیش به رو الان می این از الار... من مجدی که بگم در امورد این که خاجه ها رو می خواهد این شرط خواهدان می که همون گرد احتمال داره <تصحاب> ها با اجدت دیگه از سری بیری دوکنه دوکنه دوکنه دوکنه اجازه خیلی سمیلی شما رو بخشها صدا کنند بخشها بوش کنید من رو بخش کنون طلاق میدید من باید برگردن رم کنید یه شوکی فرستن به شما الان از من مجدی که میخواستم بگم در مورد که تاجوهار مطورد این نگه ولی که میگن احتمال داره نتونم برای احتمال داره که